سلام علیکم، سلام علیکم، حال احوال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم به همراه جلال سیدی، سیده هاویل شراگیم از راه دور و امروز به همراه سامی سامی برگشته با شماییم با ایسکای پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده از ساعت سه تا هفته اصف بله، بله با شماییم همراه ما باشید اما دوستان عزیز دقت بفرمایید دیروز یه روز خیلی مهم توی تقویم ما بود چی بودونم روز پزشک به به به به تبریک میگیم حسابی به بروبچز پزشک چون ما خیلی سمیمی هستیم دیگه با دکتر مکتره همیجوری سمیمی و خوشحال و اینا بروبچز و اینا روزشون رو به بروبچز پزشک تبریک میگیم اصلا یعنی یه قشریان ها این دکتره ها فریخته با سواد خوب منصف دلسوز مردم دوست دنبال مریض اصلا مورد بده طرف با هزار تا درد رفته دکتر گفته های دکتر خانم دکتر من مریضم من اصلا عدسه میکنم کل ساختمون میلرزه رود نیل از دماغم جاریه نفس میکشم صدا جارو برقی میاد بیرون تب دارم تو مایه های تنور سنگک کلم شده ان کل ساختمون پزشکان بدن درد دارم مثل این معتادا که مواد بهشون نمیرسه صدام شده مثل سرمایی تو مدرسه موشا اینجوری حرف میزنم مجده. آقا به حسابا دکتر جون نجاتم بده بعد دکتر جون چیکار کرده فکر میکنین یه چوب بستنی از تو اون لیوان رو میزیش درآورده گفته آکن آکن جنم آ آ آ آ شما تا هر کردین دکتر چوب بستنیش شو تا دسته, دسته کرده تو گلوتون یه چرا قوه منداخته تو جلو تمام آقا تمام یعنی بعد از این حرکت تموم شده رفتی به کارش اصلا انگار این چوب بستنی چرا قوه دکتر دم مسیحاییه خودش کاره چار تا پینیسیلین و آنتی بیوتی گوه انجام میداره اسمان. خوب شدی رفتی پی کارت ای مریض اینه به همین دلیله که ما میخواییم اینجا به نمایندگی از همه همه ی جامعه غیر پزشکی از زحمات جامعه پزشکی به خصوص پزشکان محترم که دیروز روزشون بوده تشکر کنیم دمتونم گرم ابتا یه آقایی پیدا کردیم درباره یه خانم دکتر یه آهنگی خونده که ما همینجا به پاس داشته روز پزشک این آهنگ تقدیم میکنیم به شما پزشکان عزیز علل خصوص خانم دکتر منظور دیگه چی کار کنیم خانم دکتر دوست داره ایشون دیگه خوش سلیغست یکم بله دکتر ج doctor Jennifer. Oh, e <laughs> خانم دوشتر خانم دوشتر آقای دوشترم بگیم نیجا خانم دوشتر خراب کردی منو بخصی نگام کردی آشقت شدم بر جد تو منو چه کردی دکتاری شدی که نجات بدی مردمو بکه اونا را بدیده خانم دوشتر آشقت شدم تو فکر سلام علیکم، آقا سعید سلام علیکم. سلام علیکم. شما چطوره شما... خوبی. مرسی شما شما خوش خوبی. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خب خب آقا سعید دیگه بگو برامون دیگه چی دیگه کارو از کردی؟ دیگه چیش کارو بدی نکردین فقط مشغول به کار خیر و کار خوب و بحبه آره دیگه. بحبه یه باغلبایی هم برای ما آورد آقا این باغلبا اصلا آخو. با لب و دهنت بازی میکرد دمه شما یه خب ببینیم چیا داریم آقا سعید؟ این هفته تولد اکبر عبدی حسین پناهی فریبرز لاچینی مایکل جکسون و شنایا توین به. این هفته گشت ارشاد چون زیاد شده قراره که یه اپلیکیشن گرشاده میخوایم گردش کنیم با این اپلیکیشنه به به به به کنسرت داریم؟ کنسرت های هفته آینده کنسرت علیرضا رزا تریسچی گروه سوین کاوه یقمایی و زانیار خسروی خانمه آقایون دختر خانم آقا بسرها این خیلی مهم لیگ رادیویی رادیو فردا تمدید شد تا اول سپتامبر یا تا 10 شهریور اونهایی که هنوز کار برامون نفرستادن یا میخوان بفرستن یا فکر کردن دیگه دیره دیر نیست فرصت دارید یه حدود یه بیشتر از یه هفته 8 9 روز دیگه فرصت دارید میتونید کار برامون بفرستید و مثل هر هفته چالش گویندگی داریم توی چالش گویندگی این هفته همکارای افتخاریمون در مورد دو برامون حرف میزنه بله و ضمننا با آیغایباف و چمران و برچه های شورای شهر قدیمی خداافظی می کنیمیم و باقای با نجفی شهردار جدید تهران هم یه قلیون اون توصیب مععنا میزنیم. و ضمننا با توجه به اینکه خیلی البته میدونید سوالمون رو ولی اون هایی که همه الان دارن به صورت زنده صدای ما رو میشنند از رادیو فردا از ایستگاه 5 شنبه و, و همطور روی اینستاگرام لاو. روی پروفایل خود من در اینستاگرام فرشید منافی میتونید اینستاگرام لایو بخشی از برنامه رو ببینید ارزمیکنم خدمتتون که سوالمون چیه با توجه به اینکه این روزها توی شهرهای مختلف ایران مدیریت شهری و شوراهای شهر داره دست به دست میشه عوض میشه و آدم های جدید دارن میان سر کار میخوایم نظر شما رو هم در باری کیفیت مدیریت شهری در جایی که زندگی میکنید بدونیم هرج و فرق نمیکنه مثلا احساس میکنی چیزی به اسم مدیریت شهری تو محل زندگی شما وجود داره یا نه حستون اینه که همه چیز هم جوول شده به امون خدا و عزیزان دارن تو شورا و شهرداری همینجوری به قول معروف صفا میکنن و به جای شهر دارن رانتا و بخوربخوراشون رو مدیریت میکنن شهر هم همینجوری باز خودش به شکل هم اردنبیل دمی اداره میشه اینجوریه خیلی‌ها فکر میکنن اصلا این شورا و اینا هم که راه انداختن یه تشکیلاته تشکیلاتیه که یعنی یده بیان توش منافع شخصی و فامیلی و رانتی و اینا رو تزمین کنن یه دسته دیگه هم میگن نه بابا اینجوریام نیست تو شعره هم بلاخره خوب و بد داریم و نباید همه همه چی سیاه و سفید دید لطفا شما جز هر دسته هستید هر کدوم از این دسته ها هستید با شرح و شکل و محاسبه نظرتون رو به ما هم بگید دوستان خارج از کشور هم میتونن از سیستم و عملکرد مدیریت شهری جایی که زندگی میکنن بگن تا ببینیم مدیریت شهری ما با خارجکی ها چی چند چندیم با هم اگر خواستید میتونید از طریق راه های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشید راه های ارتباطی با ایستگاه 5 شنبه ایمیل ایستگاه پنج ات رادیوفردا و تلفون های تماس برنامه برنام با 163 میتونید از طریق تل... صفحه تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام شخصی فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS آی با ما در ارتباط باشید. امروز حال خوشی داریم، کاری موسیقی فرش جونالون پشت هر چرا قرمزی که وای می خیلی بله. عظیمی از بچه های کار و دست ها و کلی ها رو داریم می بینیم گدا هم که دیگه نگود گل تهران پر از گدا شده تو پس پسکوچه هم که میری پر از معتاد و کارتون خوابه من دقیقا مفهوم مدیریت شهری توی تهران رو درک نمیکنم. بله خیلی ممنونم از نظر این دوست عزیز راجع به مدیریت شهری در شهر تهران که گفتن درک نمی کنن مدیریت شهری رو شما هم می تونید با ما در تماس باشید از هر شهری که هستید و اگر حتی از خارج از کشور هستید می تونید بامون در تماس باشید و بهمون به بگید که در شهرتون چه خبره و مدیریت شهری به چه شکلیه. اما خانومها ها آقایون بالاخره دیروز شورای شهر جدید تهران به طور رسمی شروع به کار کرد و روز سهشنبه اعضای شورای سابق غزل خدافظی رو خوندن به خدا اصلا شوخی نمیکنم، اما واقعا غزل خدافظی خونده شد تو شورا جدی میگم یعنی آقای مختاباد عضو شورا که خاننده هستند هستن تشریف بردن پشت تیریبون و اینجوری زدن زیر آواز زر زر. بله اصلا اشتباه نکنید رستوران بین راهی نیست الان اینجا. این الان شورای شهره. آقای مختوابان دارن آواز می کنن. غزل دارم میخونم. دیگه شورای شهر تهران دیگه آخرین شورا بوده. و آقای مختواب هم این غزله رو خوندن یعنی انقدر هم هزار اهل دل و هنر و موسیقین یک دقیق هم سکوت نمیکنن بنده خدا आवाजشو بخونه برپیکارش همه همونجور دارن حرف میزنن بعد از این اتفاق بود که خیلی نگران شدن نکنه بقیه از آن بخوان بیان از هنرهای غیر شورایی در این آخرین جلسه پرده برداری کنن مثلا چه نو عباس جدیدی علیرضا دبیر بیان یه زیره خم و یه دو تا فتیله پیچ به هم بزنن یادگاری بمونه واسه شورا یا حوچوسین رزازده بیاد مثلا آقای رو در یک حرکت یک زر ببره ببره بالای سر با دو دوتا عبرفرزی هم بگه بلند ما هم عشق تو چشامون از خوشحالی بقیه هم که خب نجومی کارن بیان جلو کاره نجومی نجومی بکنن اتفاقا حرف از نجومی شد آقای غالیباف هم توی این مراسم پرشور حاضر بودن و اشق و علاقه خاص خودشون به شورای سابق رو اینجوری اعلام کردن توی این مراسم. باید شهادت بدم که این شورا در حین نظارت، در حین نقد، در حین که چالش‌های جدی داشتیم، من امروز عرض می‌کنم که بیشترین حمایت و همراهی رو برای حل مشکلات مردم این شورا داشت. به به بله بالاخره بله شورای که علاوه بر همه اون ماجرای املاک نجومی و سوء مدیریت‌های منجر به لاسکو صداش هم در نیومد اونقدرم به حال هوای شهردار جونشو داشت باید اینجوری ایشونو مدیون خودش بکنه به حال دیگه دوستان برای یه سفره ای بوده به اسم شهر تهران و ماشاءالله پر برکت هم بوده هر کس منزه وسع و توان خودش تراکومی ملکی رانتی چیزی برده دیگه بالا سریام که وقت شما خودی باشی به این چیزا کاری ندارن که میخوریم میره پایین لبنانم امروز که وقت گیر نکنه تو جلوت تو این مرسم البته آقای چمران رئیس شعرام که بالاخره در این 12-13 سالی که بر حال ساماندهی این نجومی کارا در شورا رو به عهده داشتن وظیفه خداحافظی رو بر عهده گرفتن. در همه پوزش می طلبیم خداحافظی می کنیم. بله پوزش هم طلبیدن به خاطر چیزایی که خوردن آبام روش. خسته نباشید دلاور واقعا سخت بود. حالا حالا شما باید برید بخوابید تا این چیزایی که نوشجان جان کردید هضم بشه. میدونم سخته. اما شورای جدید هم که محسن هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی رو به عنوان رئیس خودش انتخاب کرده رسما کارش از دیروز شروع شد و آقای رئیس جدید توی مصاحبه تلویزیونی با یه متلکی که به معمود انداخت کارشو شروع کرد و اصولا قدیم وقتی نام از شهردار شهرداری میبردن یاد سپور میافتند. و شهردار رو با سپور بشخص میکردن بعضی از شهرداران هم برای اینکه که پوز مردمی بدن لباس سپوری رو میپوشیدن گهگاهی برای اینکه خودشون رو در منصب شهردار ببینن بلکه اشاره داره به اون عکس معروف اوسم محمود در دوره شهرداری تهران که با لباس رفتگران زحمتکش رفته بودن بین این عزیزان نشسته بودن اما تو اولین جلسه رسمی شورای شهر جدید محسن هاشمی بیشتر از اینکه یاد خودش و شورا و وضعیت شهر و این حرف باشه یاد باباش بود. هی hey, بغض کرد بر باباش. و علال خصوص آیت الله هاشمی رفسنجانی که یکی از خدمت‌ترین شخصیت‌ها برای شهرفندان تهرانی به شمار می‌رفت و با تصدی سه دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و پنج دوره <تصفيق> بند. خدا رحمت. مردم اوستان تهران در مجلس خبرگان رهبری و همچنین با مسئولیت‌های چون ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، خدمات شایان توجه به پایتخت و امبولقرا جهان اسلام نمود. <تصفيق> را نیست گرامی میدونه سر نمیتونه حرف بزنه بابا این محسن خب محسن جان ماشاءالله باباجون شما تو این 40 سال زمان داریش در بالاترین سطح قدرت و حکومت یعنی این چهار تا دون کارم میخواد نکنه که حالا شما اینقدر احساساتی میشه میشه نمیشی خدا رحمت کنه البته به هر حال الان این شورای شهر جدید تهران به طور کل و یک دست در اختیار لیست امید یعنی لیستی که تحت حمایت اصلاح طلبها و اعتدالیون آخرین باری که این شورا به این شکل دست این دوستان بود شورای شهر اول بود که اصلا تجربه خوبی ازش در نایمد عزیزان دانشمند اصلاحطلب جوری به جون هم افتادن توش هم دیگر دریدن که وسط های کار اصلا شورا کلن منحل شد فکر همهشون همشون از یه دسته بودن به یه جا وست بودن دولت و مجلس هم دست خودشون بود بازم نتونستم با هم کنار بیاند اینقدم نتونستم با هم کنار بیام که شورا کلا منحل شد و به کارش راستاً. اینی که الان خیلیا شمارش معکوس رو شروع کردن ببینن شورای جدید کی میخواد حالا منحل بشه و بهتره که بره هوا. از بس که تجربه های بد بد هست از اینا خدا به خیر کنه دیگه کلا. چند روز پیش سینمای جهان یک ستاره دیگه از دوران تلایی خودشو از دست داد جری لویز کمدیانی که توی کشور ما با دوبله های موندگار حمید قنبری شناخته شده بود همین یک شنبهی که گذشت توی سن 91 سالگی از دنیا رفت با همی قسمت هایی از دوبله فیلم سه نفر روی نیمکت رو با هم بشنبیم او روز بخیر هام. روز بخیر؟ کاروزه خوری سمروز از اون روزهای بی معناداری که گاو و آهو خرگوش درد شد من از کول خود برام ناهی چه منظره ای قشنگی ببینم آقا شما اومدین اینجا چیزی بخرین یا اینکه میخواین شرتونو تموم کنین اوه ببخشین آهو گاو باله باله میخاسم یه کمی از این اطعمه قشوق برای ننه مزرعه یس باله واقعا شاید بخشی از محبوبیت زیاد این کمدین آمریکایی توی کشورمون علاوه بر بازی هنرمندانی خودش مربوط به دوبله های عالی مرحوم حمید غنبری پدر شهیار قمبری عزیز باشه و حالا که جریلویز در خیلی خوبه که یادیم از این پیشکسفت پیش عرصه صدا بکنیم که با دوبلا های خوبش جریلویز رو به زائقه ما ایرانی ها کرد اما فیلم های زیادی از این کومیدین آمریکایی توی کشورمون به نمایش در اومده فیلم های مثل بوینگ بوینگ، پروفسور دیوانه، ایالوار، دهنگوشاد، سلطان کمدی و البته دنیای دیوانه دیوانه دیوانه واقعا خیلی بعیده کسی در ایران زندگی کرده باشه و توی سنین میانسالی و بالاتر باشه و با این فیلم ها نخندیده باشه و یا خاطرهی با این فیلم ها نداشته باشه امیدواریم همونجور که شادی رو برای خیلی به ارمغان آورد روح شاد و آروم باشه. البته ناگفته نمونه که جریلویس صدای خوبی هم داشته و در زمینه خوانندگی هم فعالیت کرده که میتونیم یکی از کاراش رو به اسم Shine On Your Shoes با هم بشنفیم. When there's a shine on your shoes, there's a melody in your heart. With the singable happy feeling A wonderful way to start to face the world every day With the dee dee dee dum dee die, Little melody that is making The worrying world go by When you walk down the street With the happy-go-lucky beat You'll find a lot in what I'm repeating When there's a shine on your shoes There's a melody in your heart What a wonderful way to start the day With a singable, happy feeling, a wonderful way to start to face the world every day. With the dee-dee-dum -de -dee little melody that is making the worrying world go by. When you walk down the street with a happy-go-lucky beat. بابک قفوری آذر ایستگاه سینما این سینوگراف اکس مترک چه افاقی دارد؟ اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید. اگر نیت ده ساله دارید درخت قرص کنید اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید سیرومتوگراف آدم تربیت می کنید سلام. چطوری؟ مرسی خوش اومدی ممنوع قربان شما خب این هفته هفته خیلی شلو خلوقی بود خیلی. برای شما <تصفح> <تصفح> این جشنی که جشن انجاما منتقدان درسته. خیلی هاشیه داره درسته جشنیه که هر سال برگزار میشه و امسال اتفاقات عجیبی توش افتاد من دیدم برنامه سحنه هم تو به همین پرداختیم آره در این باره هم صحبت کردیم تو برنامه صحنه و از موقعی که این اتفاق ها افتاده تا حالا به خصوص تو بخشای غیر رسمی محافل سینمایی اونطور هم که من خبر دارم خیلی صحبت درباره این صحبت ها و اتفاقاتی که اونجا افتاد داغ و همه صحبت میکنم و همه دنبال اینن که دلیلش چیه چی مم. شد که اینجوری یکی دو اتفاق اتفاقم نبود این صحبت ها و حرفایی که زده شد و همه دنبال دلیل اینن که چرا این صحبت ها شد و چرا تو این جشن اومد که هر سالم برگزار میشد و مراسمی بودش که منتقدان هم نظر خودشونو برای بهترین های سال اعلام میکردن حالا صحبت درباره نحوه داوری فیلم هر سال داغ بود درباره نوع انتخاب اما اینکه الان صحبت ها و گفته های افرادی که رو صحنه رفتن بیشتر داره صحبت میشه تا اینکه نظر منتقدان چی بود و چه فیلمی بهترین فیلم شد و به کیا جایزه دادن و روند انتخاب بود و خیلی عجیب غریب بود و ام فرمی شروع این اتفاق حالا یک بخشیش که خیلی هاشیه داشت صحبتهای آقای مشایخی بود برای یه بار اول این بخش رو بشنویم با هم برگردیم من دیداری میدونستم که فقط یک کنردویشه برای منتقدی مطرحه سامخا بودستن که کنرد رها کردم و رفته بودم فقط که ما آسایتون یه هم بقیه نیستم بازیگر نیستن، زحمت بگیستم دفت چه ها سین ما هیچ کدوم زحمت بگیشیدم بعد یه نفر بعد یه نفر که اون موقع دنبک بیزن جد که حالا بیاد خونشون تو رن چرا شمایی داره نمیدونیم بله خیلی هم عصبانی بود آقای مشخه خیلی آقای البته به آقای انتظامی, انتظامی, انتظامی هست کلیپی که در مراسم پخش شد آقای انتظامی بوده و کاملا هم روشن بود که چه فردی و مدنظرشون هسته چه بازیگری رو که به منزلم اشاره میکنه منظور موزه شدن خانه آقای سينما. انتظامی هست و این جملهی دلوقتي... که گفت یه گفت که تنبک میزده جلوی شهبانو من نمیدونم این از کجاش درورد آقای مشیخی اتفاقاتیه که پیش از انقلاب در مجموع آقای مشیخی، آقای انتظامی، آقای رشیدی، آقای کشاورز در مجموع بازیگران شاخص در کنار آقای نسیریان، پنج بازیگر شاخص قبل از سینما ای ایران هستن اعتبار بازیگری سینما ای ایران هستن بهتر بخوایم صحبت بکنیم و در واقع باستابی بود از مسائل درونی خود این هم. پنج نفر تا حدود زیادی خیلی که خیلی اینا دعوا داشتن با هم نه؟ دعوای آشکار که خب بیشتر شاید بسمش رقابت حرفیی گذاشت آه. و خب در مجموع باید پذیرفت که آقای انتظامی در میان همه این افراد بیش از همه تقدیر شده مورد توجه قرار گرفته بازیگریش مورد توجه قرار گرفته و همین عصبانی کرد آقای من همه و گلایه های این سالها و این دهها جمع شد و یک دفعه به این شکل بروز پیدا کرد که بعدتر میگم که روز بعدش آقای مشرقی گفته گویی کرد و خودش گفت که نباید این صحبته رو میکرده و در واقع یک عصبانیت لحظه ای بوده اما خب نکته قابل توجه این بود که آقای تنظیمی به این صحبت‌ها واکنشی نشون نداد از موقعی که صحبت شد اما تو همون مراسم برخی در واقع به نف و علیه این افراد صحبت کرد یکی از افرادی که در واقع در طرفتاری از آقای مشایخی صحبت کرد قلام عباس فازلی بود از منتقدان سینما سده هست داره به طور مرتب نقش یک پیرمرد گرگروی بد اخلاق بازی میکنه اشاره آقای مشایخی رو جدی بگیریم ایشون بزرگ ما هستند ایشون حق دارن و به نظر من ایشون اشاره درستی کردن حاله. آقای فاضلی ظاهرا نقدی نوشته بود بله و صحبت یه ما درباره یک مطلبی که چند سال پیش آقای غلام عباس فاضلی نوشت و به نوعی در واقع نقدی بود بر همه نقش‌آفرینی‌هایی که آقای انتظامی در سالهای گذشته انجام داده بود و تو نقدشون میگفتن که در واقع این انتظامی تکرار نقش کرده درسته. و اشاره به اون بود که بعد هم ظاهرا واکنش آقای انتظامی نشون داده بود به اون مطلب اینا رو تعریف کرد و خب همون همین صحبتهای فازلی باز هم با واکنش مواجه شد دوباره آره واکنش نوید محمد زاده مواجه شد که اونم خیلی عصبانی شد وقتی راجع بهشون حرف میزنیم میگیم آقای بازیگر استاد ازدتون الله انتظام ما که میتونیم یه مالا افتخار کنیم به نق دیگه سه دقیقیشون پیرمرده چیچی بازی کرده سه دهه به ما یاد داده با اون بازیاش و بازی های که من با اونها رو دیدم چطور ممکنه این ند افتخار بدونید آقای فاضلی؟ چطور ممکنه راجبه استاد ازتران اتظامی اینقدر بی احترام صحبت کنید که بگید به من زندگ دو من بچه سنگلاجم نه بعد احترام بذاریم همه تاج سرن آقای مشرخی آقای اتظامی دونه دونه رو ما میتونیم یه شیزی رو کنیم بیاییم بی احترامی کنیم به استاد ازتون انتظامی نه دیگه از این صحبت ها نوید محمدزاده بود که در واقع بروی این صحبت ها صحبت کن جش بعدتر هم شکل دیگهی به خودش گرفت از زاویهی ای دیگری اینکه در واقع فاصله بین جهدگیری های سینماگران رو نشون داد از دهاز فکری و اعتقادی و منابع مالی که برای تولید سینمای ایران تزریق میشه به سینما و اونجا هم دوباره یک سری صحبت ها شد مثلا خانم تحمیل میلانی یک صحبتی رو مطرح کرد بسید اینجورا نخواستین یه زنگه ما بزنیم منم فیلم همون نشونتونم شد خیلی فیلمه قشنیست مالا خواهیی دیدیم شادا مونه قدید ما باید مستقل باشن عزیزان خواهش هم از شما ندیم شما نباید جاهای دورتی ها بزنیم ا بسه سینمای دولتی و سینمای خصوصی که سال در سینمای ایران مطرح است، اینکه که کدوم فیلمساز از منابع دولتی بیشتر استفاده میکنه کدوم کمتر یا بعضی ادعا میکنن که اصلا استفاده نمیکنن این, این نظریه بدتر با اقدامی که آقای جعفر پناهی انجام داد دعوت شده بود به عنوان یکی از اهداکنندگان جایزه بخش بهترین فیلم که البته قرار بود یک دیپلم افتخاری داده بشه بعد جایزه اصلی بهترین فیلم داده بشه و بعد ظاهرا وقتی میفهمم آقای پناهی که یکی از گیرندگان جایزه آقای محمد حسین مهدویان کارگردان فیلم خیلی بحث انگیز ماجرای نیمروز هست که به اتفاقات اوایل انقلاب میپردازه و درگیریهای سازمان مجاهدین خلق و سپای پاسداران امتنا کرد که از اینکه جزء اهداکنندگان جایزه باشه. این جعفر پنداهی قرار بود این جایزه رو در کنار به آقای کارگردان این فیلم آقای بده. عمود یوسفی و خانم رخشانه بنی اعتماد سه نفری بودن که قرار بود اهداکننده جایزه باشن. میره پایین و اصلا میره, میره بیرون میره، از میره روی میره کنار از روی صحنه که در کنار آقای مهدویان نباشه. تا لحظه‌ای که آقای مهدویان رو سن بود حاضر نشود که بیان بعد که جایزه اصلی بهترین فیلم رو قرار شد اهدا کنن. دوباره آقای پناهی روی صحنه اومد که جایزه آقای نعمت‌الله رو بخواست بده برای فیلم رگ خواب بعد اونجا هم یه صحبتایی اومد رکا جملاتی گفت ببینید اصلا مخاطب نیستیم که واقعا تو سینما چه کسی فیلم بسازه درست؟ وقتی بحث سینمای دولتی رو می‌گیرید می‌گید بعد اینا فیلم بسازن، با کلو بسازن، صدها سینما رو اینا بدن، ولی فقط یه سینما این صحبت در واقع نشون یک نوع گلایه‌ای بود از محدودیتایی که خود آی پناهی براش پیش اومده و اینکه امکان نمایش فیلم‌ها براش فراهم بشه اما فراتر از اون واقعاً این جشن نشون دادش که بین سینماگران ایرانی با وجود اینکه حالا در ظاهر صحبت‌ها همیشه مطرح بوده که همه همراه و هم در واقع در کنار هم هستند اما از نظر, نظر مسائل حرفه‌ای و همینطور جهدگیری های فکری و اعتقادی خیلی اختلاف نظره البته این خیلی چیز بعدی نیست مم... ممکنه حالا بگیم که شکل بروزه شاید جالب نبوده توی یه همچین جشنی این و... جشنی آره... که معمولا بخصوصا هم حالا از بین کسانی که الگو هستن و به نوعی بهشون استوار و استوانه های سینما ایران میگن بین بازیگران پیش کسفرت. اون صحبت ها خب در مجموع خیلی توجه برانگیز بود تا اینکه خب مشخصه آقای جعفر پناهی با محمد محمدحسین مهدویان خیلی فکری فکریشون متفاوت و کنار هم مثلا حال بعضی‌ها نظر می‌دادن که آقای پناهی باید میومد از نظر اینکه یک تقدیری بودش کنار آقای مهدویان قرار بگیرم اما یک سری‌ها طرفداری کردن از آقای پناهی و اقدامی که انجام داد خیلی همه اینا باعث بحث و گفتگو شده هم جریان سینمایی رو تکون داده هم مخاطبان سینمای ایران رو روی ای این اتفاق نظرشون رو جلب کرد. خب بابا که فرصت ما خیلی کمه هفته پیش راجع با دستمزد دستمزد بازیگران صحبت خانم، کرده مجله فوربز آه. که لیست پردرآمدترین بازیگران زن رو منتشر کرد هفته بعدش که بشه همین چند روز گذشته برای بازیگران مرد منتشر کرد خوب. و اونجا همون موضوعی که اختلاف درآمد خیلی فاحشی وجود داره بین بازیگران زن و مرد و نشون داد در لیستش آقای مارک والبرگ به عنوان پردرآمدترین بازیگر مرد معرفی شد با 68 میلیون دلار 68 میلیون دلار یعنی بیشتر, بیشتر از دو برابر بیشتر از دو برابر 24 میلیون دلاری که خانم امای استون اس کی سے نشین جدول زنان بود خیلی نشون داد و اصلا حالا دوباره نگاه ها رفت روی این اختلاف تا اینکه حالا کی بیشتره چرا مارک والبرگ باید بالاتر باشه که به مارک والبرگ خاطر به خاطر ایفا نقشش تو سری فیلم های ترانسفورمر ها هست درسته. که خود اون فیلم ها وقتی مورد توجه قرار می گیرن طبعا بازیگر هم دستموزش میره بالا اما نشون داد در داست... دوم و سوم جانسون و وین قرار گرفتن دوم سوم و, و که بازیگران سری فیلم های اکشن هنوز بازم مورد توجه اونا چقدر میگیرن دواین جاینسون 65 میلیون دلار و وین دیزل هم 60 میلیون دلار یعنی اختلافم اونجا پولایی خ... میگیرن به اختلافشون هم <تصفيق> کم هست اما خب در مجموع این نشون میداد که نکته جالبه که اما استون در واقع یک بازیگر تقدیر شده است همه درباره نوع بازیگریش صحبت میکنن به من یکی از کسانی هست که درباره بازیگری در واقع میشه گفت که دغدغه‌های بیشتری داره، دلیبا. سطح ارائهش بیشتره اما در مقابل بازیگران مرد ظاهراً به بازیگران اکشن،, اکشن, اکشن, اکشن کار <تصفيق> کلا کمتر از نظر امبلاً. سطح بازیگری مورد توجه منتقدان کمتر قرار می‌گیرن تا بازیگران فیلم‌های درامو بله. و جدی‌تر. بسیار خب ممنونم ازت. بابک قفوری آذر رو می‌تونید روی توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر. بابک تا هفته دیگه. ممنون قربان. Before all I heard was silence A rhapsody for you and me And every melody is timeless Life was stringing me along. Then you came and you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 کجا بوده ویزای شینگنمون کجا کجا بوده اقامت اروپا مون کجا بوده ما اینکه ویزای شینگن داشتیم اقامت اروپا داشتیم که نمیمدیم دست به دامن برنامه‌ی تو بشیم که ذلیل بخندیم بلکن کن بابا ول مون کن این حرفا چیه لیگ کدومه ای جانم, ای جانم. قربون شما دم شما گر می که تماس گرفتیم میدونم خب همه که ندارن سخته میدونم ما شرمنده ایم میدونیم که خیلی‌ها نمیتونن تو این لیگ شرکت کنند. ولی دستوبالمون بسته است دیگه چی می چه میشه کرد؟ یک بار دیگه بگم برای اونهایی که میخوان در لیگ رادیوی ایسکای پنجشنبه شرکت بکنن در لیگ رادیوی ما در این لیگ چهار نفر برگزیده رو انتخاب میکنیم و این چهار نفر به پراگ پایتخت جمهوری چک میان در رادیو فردا و به مدت سه ماه دوره کاراموزی رو میگذرونن برگزیدگان دقیقا بفرمایید پس اگر میخواد در لیگ شرکت بکنید میتونید یک کار یک قبلا هم البته توضیح دادیم بهتون یک آ تنز طنز رادیویی 5 دقیقه‌ای می‌خواید برامون بفرستید که همه کاراش از نوشتن و اجرا و انتخاب موسیقی و افکت و بازیگری و میکس و هر که توش داره باید مال خودتون باشه خودتون انجامش بدین میتونه نمایشی باشه میتونه شوخی با اخبار باشه میتونه شوخی با موضوعات اجتماعی ورزشی هنری و هر چیز دیگه‌ای باشه و زمنن حتما لطفا دقت کنید اگر میخواید در لیگ شرکت داده بشید فقط کار رادیویی یا فقط رزومه کافی نیست همه اینها رو باید برای ما بفرستید به ایمیلی که روی شبکای مجازی هم گذاشتیم استگاه پنج ات رادیوفردا پس سه تا چیز مهمه که باید برای ما بفرستید آیتم تنز رادیویی تا پنج دقیقه حد اکثر رزومه اکستار و همینطور ارز به حضورتون که ویزا یا پاسپورت پاسپورتتون که برای ما مشخص بشه که میتونید به اروپا سفر بکنید پس تقت کنید اون چهار نفر برگزیده شانس این رو پیدا میکنن که به رادیو فردا بیان به پراگ بیان سفر کنن یک دوری کارآموزی بگذرونن با حقوق و محل اسکان و در نهایت هم یکی از این چهار نفر ممکنه که استخدام بشه. تمدید شد لیگ رادیویی 9 روز دیگه هش 9 روز دیگه فرصت دارید. یعنی تا ده شهریور یا اول سپتام فرصت دارید که کارتون رو برای ما بفرستید. به خند بازم به خند بازم به خند به خند با این شاید این روز ایستگاه خانم و آقایون با بنابرای گزارش های رسیده ظاهراً دوباره فعالیت گشت های ارشاد این روزا زیاد شده و مهمور های این کار دوباره اطول اونه هاشون اومدن بیرون و خلاصه ملتو میگیرن و میبرن و تو ون و این حرفا دیگه خودتون میدونین چه خبره رئیس جدید پلیس تهران هم گفته که های پلیس در زمینه گشت ارشاد است برخوردهای سلبی و قهرامیز نخواهیم داشت. یعنی چه جوری؟ یعنی مثلا خانم فاتی کماندو میاد سمت دخترام میگه گلم خانمم یه دقیقه وقتت می دی برخورد ایجابی بواد بکنم؟ والا چیزی که ما هر روز داریم از ویدیوها و این عکسایی که میاد بیرون میبینیم برخوردها همه سلبیه یعنی هم سلبیه هم قهرمیزه هم بکش بکش بیا به برنامه من تو ون و اینا جیقودادی و این حرفاست. حالا جالبه میگن تو بعضی معابر سری کیوس کم گذاشتن خانمار میبرن توش باشون اونجا ظاهرا برخورده ایجابی میکنن یعنی چه میدونم میخوان که ارشاد کنن دیگه مثلا فاتی جون میگه گلم خانومم شما خودت میدونی که وقتی کم هجاب میری تو خیابون مثل شکلات میمونی که بدون پوسته رها شده باشی رو میز خب مگسا می안 میشینن رود خانومم بعد دیگه دختره میگه بله ممنون برخورده ایجابیتون تموم شد من میتونم برم فاتی میگن غلام عزیزم خانومم من در عجبم از مردای شما دختر خانم میگه چرا؟ فاطمه میگه این مردای شما رو ماشینشون چادر میکشن، روش گردوخاک نشینه ولی ناموسشون اینجوری میفسن تو خیابون. بعدم در داخل که دختر خانم چیزی نمونده، برخورد ایجابی بالا بیاره از کیوسک در میاد، سعی میکنه عجله سریعتر دیگه به فرار دیگه از بس که ایجاب شده. تازه از اون ور رئیس اداره پوشاک مملکت هم برگشته گفته که شلوار پاره در شأن ایرانی نیست. ما کاری با مود دنیا نداریم مانتو باید دکمه داشته باشد یکی نیست بگه حاجی جان شما اگه دقت کنی خیلی جاهای پاره مهمتری تو مملکت پیدا میکنی یا؟ اگه دقیق دقت کنی خیلی جاهای پاره زیاده. ما مثلا پارگی داشتیم تو کشور سه هزار میلیارد ازش رد شده کسی نفهمیده. پارگی داشتیم 9000 میلیارد ازش ریخته بیرون کسی صداش در نیماده بعد الانشا گیر دادی به پارگی شلوار به دکمه مانتو؟ عجبه عجبه عجبه یه خاطره عجیبی نازگل توی تویترش در مورد گشترشات نوشته بود میخونم براتون نوشته که یه بارم گشترشات منو گرفت چون زیر بارون تو توچال بدون چتر داشتم راه میرفتم واسه خودم گفتن منظور چیه خیس بشی جلب توجه کنی؟ یعنی عجیبن غریبا همه این بگیر به بنده در حالیه که مثلا مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصلاح طلب توی خاطره ای که از دوران تو کلکلش با بازجوهاش تعریف کرده در همین مورد صحبت جالبی داشته تاج تعریف میکنه که بازجوهاش یه آماری رو میارن براش که بر اساس اون 92 درصد از مردم با گشت ارشاد موافق بودن تو این آمار حالا دیگه بقیه ماجرای رو از زبون خودش بشنوید گفت 91 دو درصد مردم طرفدار گشت های ارشاد گفتم بیشتر توضیح گفتم این اندفعه اولین انتخاباتی که میاد این آمارو بدید به نامزدهاتون اینا رو تبدیل کنم به شعارهای اصلی شم بگم ما بیای سراسر ایران گشت ارشاد میذاریم نود درصد رأی ددن گفت دست ین گفتم نه ببینه میی نودو درصد ترفتار و معمولا نامزد ها در روز انتخاب در ایام تبلیغات انتخاباتی نکاتی رو میگن که جام خوشش میاد دیگه یک درصد هستن 80 درصد مخالفم خب اینا رو ببینید ولی گفتم همینجوری میگم یک نامزد اصولگرا این شوهر رو نخواهد گفت چرا گفتم اینکه میدونید مردم اکثریت میخوان بله خلاصه دوستان وضعیتیه با این نوابغ گشتری شادی دیگه ها راستی دوستانی که تلفن هوشمند دارن تلفن هوشمند اندروید دارن میتونن اپلیکیشن اندرویدی گرشاد رو نصب کنن رو موبایلشون دیگه صفا سی تی. خیلی راحت و سریع از رو نقشه جایی که هستید میتونید ببینید نزدیکترین گشت ارشاد به شما کجاست اصلا دور و گشت ارشاد هست یا نه میتونین اگه جای گشت ارشاد هم دیدین توی خود اپ یا خبر بدین اضافه کنن روی نقشه شون اگرم گوشی اندروید ندارید میتونید برید توی کانال تلگرامی گرشاد از اونجا چک کنین ببینین گشت ارشاد کجا که بتونین گردش کنین چون شعار این گرشادی اسم گرشاد برای همین گذاشتن که با گرشاد گردش کن یعنی بپیچون خلاصه با این اپ به همه اطلاع بدین که گشت ارشاد کجا ها مستقره تا کسی تو تور اینا نیفته دیگه مورد برخورد ایجابی قرار بگیره والا با این ارشادشون. منو تو بگیره چی میشه پدرو بگیره اگه خسته گریش چی میشه دلم نگیره اگه برام بمیره چی میشه چی میشه چی میشه گوشش اسو منو بگیره چی میشه گل مال حقیره. اگه اسم بگیره چی میشه دلم ماتیره اگه قله بگیره چی چی میشه چی میشه, چی میشه؟ گشتر شد منو با تو ببینه چی میشه نقش با چینه منو با تو بگیره چی میشه آشق اینه بی اون نفس نمیره نمیشه نمیشه گشتر شد آخه با چی میشه دیده مردات از داشتنی باشه چی میشه اگه بابا منو با, با تو ببینه چی میشه یه دل, دل به دل داره خیلی دوسش داره پشت در, در با سر میزنم پرتو رو شدم آخر عاشق سلام در ماه شهریور ماه تولد اکبر عبدیه مردی که شاید اصلا اقراق نباشه که به عنوان یکی از استثنایی ترین چهره های بازیگری تاریخ سینمای ایران لقب بگیره اکبر عبدی از اون زمانی که توی برنامه های کودک و نوجوان مثل باز مدرسه مدیر شد یا محله بهداش نقش آفرینی میکرد تا زمانی که با های بزرگی مثل علی حاتمی و محسن مخملباف و ناصر تقوایی همکاری کرد یک بازیگر ممتاز بود کسی که میتونست هر نقشی رو تاکید میکنم هر نقشی رو به بهترین وجه ممکن بازی کنه و تماشاگر حتی یک لحظه هم فکر نکنه که اون داره براش فیلم بازی میکنه از نقش یه زن توی فیلم آدم برفی داوود میر باقری تا نقش پیر پیرزن توی فیلم خوابمیاد از رضا عطاران و یا حتی نقش یه نوزاد توی فیلم هنرپیشه محسن مخمل باف اکبر ابدی شخصیت ساده باورپذیر و دوست داشتنی داره و البته همین سادگیش هم باعث میشه که حتی وقتی خودش هم با مخاطب حرف میزنه با صفا و سمیمی و خنددار به نظر بیاد حال وجود امثال اکبر ابدی به خصوص برای سینمای کمدی ایران علا همه فراز و نشیب هایی که داشتن غنیمت و باید از اونها برای پرورش دادن استعدادهای جدید استفاده بشه خیلی از جوانهای سینما اکبر عبدی رو امو اکبر صدا میکنن همون جوری که زندیات شکیبایی براشون امو خسرو بود پس ما هم سال روز تولد تابستونی امو اکبر سینمای ایران رو به خودش و طرفداراش تبریک میگیم و امیدواریم حالا حالا ها سالم و حال در کنار مردم ایران به هنرنمایی به پرزن. روی صحنه سر برم سلطان وقتم سدنگینه بی بدن رو تاج و تختم زندگی رو سحنه ها یه پرچه نوره هر از نظرین سیاه بختم من فقیرم فقر من فقر منه که منه من شکستنی مثال شیشم توناش بلوریه زندگی gülbüller خصوص انتخاب وزیران و جلساتی که در مجلس تشکیل شد به روشنی مشخص است که بحث سر منافع هست خاطرتون هست آقا زمانی بحث از آرمان ها کرد و در مذاکرات بین دولت ها صحبت از به میان کشیدن آرمان ها کرد عوصه حسن به آقا فرمود این چه صحبتی است که در خصوص آرمان ها میکنیم بحث سر منافع هست هر دولتی منافع دولت خودش رو در نظر می گیره منافع مملکت خودش رو در نظر می گیره حالا این وضعی در خصوص انتخاب وزیران هم صدق میکنه و بس در خصوص منافع نمایندگان مجلس هست شک نکنید که کلی مذاکرات پشت پرده قبل از اون بین نمایندگان و تک تک اعضای حیرت وزیران به خصوص هر وزیری لابی های خودشو داره به اصطلاح تیم های خودشو داره آدم های خودشونو دارن که با لابیای نمایندگان صحبت های لازمو کردند و کلی قراردادها، کلی قرار ها بین خودشون منعقد کردن و صحبت سر منافع هست خب بالاخره اوایل این هفته بعد از چند روز مراسم پرشور توی مجلس 16 نفر از 17 وزیر پیشنهادی شیخ حسن از مجلس رأی اعتماد گرفتن و فقط آقای بیترف طرفداری تو مجلس نداشت و نتونست به عنوان وزیر نیرو اعتماد مجلسی ها رو جلب کنه اما خب طبق معمول حواشی این جلسات و رعیگیری های مربوطه کم نبود یکی از عجیبترین هاشی ها هم این بود که یه تعداد نچندان کمی از نماینده ها های باطله و ممتنه داده بودن به وزرا. بابا آخه شما خیر سرت نماینده مملکتی حالا تو رعیگیری های عمومی حالا چه میدونم ی خوشحال امیشه پیدا میشن میرن چه میدونم به شوهر امشون رای میدن ولی شما دیگه چرا آخه اونم تو رای اعتماد به وزرا یعنی بعضی خوداووکلی نمایندگی تو فامیلشون هم براشون زیاده چه برسه تو مجلس بعد آخه رای ممتنع یعنی چی اصلا چرا باید امکان رای ممتنع داشته باشن نماینده ها من نمیفهمم شما یه گونی حویج هم بذاری رو صندلیهای مجلس بعد از روز داد و بیداد و بحث و گپ و لابی بلخری خودش داره بعد نماینده مملکت ما این امکانو داره نظری نداشته باشه ممتنه رأی بده میده عالیه به خدا و عزمونا. یا مثلا توی یکی از آخرین جلسات رای اعتماد یکی از نماینده اتصالی کرد پشت تیری بون چه اتفاقی افتاد مجلس رو با شب شعر اشتباه گرفت البته باقی نمایندگان هم با به و چه چه ازش استقبال کردند. هوا خوشگوار و زمین پرنگار نگرم و نه سرد و همیشه بهار به به گلاب است گویی به جویش روان همیشه شاد گردد ز بویش روان به به بهمن و آذر و, و فروردین همیشه پر از زاله بینی استفاده کردند یعزی اشعار رو به خاطر تازه هیجان این جلسه اینقدر به نماینده‌ها فشار آورده بود که یکی مثل آقای غازیپور پور یهو بودو بودو وسط جلسه آقا از صحنه مجلس زد بیرون بعد از چند لحظه با شش تا گلابی برگشت رفت پشت میز شروع کرد به جاسازی گلابیا چه کم وا که کم نشده باشه تو کشو و بعد گذاشت تو کشو میزش بعد دیگه پشت مانیتورش قایم شد شروع کرد به خوردن یکی از گلابیا وسط جلسه رأی اعتماد خب این صحنه حماسی گلابی که پور خلق کرد توسط عکاسان حاضر در مجلس ثبت شده و شما الان اگه بریم مثلا گلابی رو گوگل کنی اول آقای قاضی پور میاد با گلابیاش بعد خود گلابی البته ایشون در توضیح این کار خودش یه توزیع هم داده یه حرفایی هم زده یه چیزایی گفته ما این کارا کردیم تو ایسمور وزیر محترم ساعت بتوند فولت این است من ظ فزول است فزولو عکس میاندازن اگر آشکار می‌خورد نه این کار شده ملت بدوند نمرنگان فقط به فیتش مردم چشاورزان کارگران من نوکل چشاورزان کارگرسام افتخار می کنم تمام خواندم نه, نه اخلاص کردم نه پارتی بازی کردم فقط واسه چشاورزان ایرانستان دفاع کردم چرا که از سایی کلال هم تا این دفاع کردیم بهش امام حسین یا حسین بله جدیده امزام دارنشون آخر حرفاشون یا زهرایی یا حسینی چیزی میگن فیزول زیاد بوده دیگه تو مجلس این عکاس ها که عکس گرفتن فیزولی کردن خب الان شما قانه شدید نخند سعید بسه کنار ما نشست میخند الان قانه شدید بعد از این برحال میدونی بعد از این نوع اعتراض ای چمی میگن؟ خیلی خوب خدا رو شوک دادن چون ایشون اینطوری که اعتراض کردن قدر عصبانیت و اینا به خرج دادن چه دیگه حرفشون خیلی خدا رو شوک کردن ایشون یه ای وقت نخواسته برای اعتراض به بدهجابی کاری بکنه چون اون موقع من نمیدونم احتمالاً ممکن بود چلوارشون می‌کشیدن پایین وسط صحنه مجلس البته بجز این های حماسی گلابیه آقای قاضیپوری نماینده این بود که چهار کلمه حرف نسبت حسابی زد تو این جلسه اونم میرزایی نماینده دماوند بود اومد پشت تریبون و در مخالفت با وزیر ارشاد پیشنهادی گفت من به عنوان دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبا چش دوختم که کی می شود فرهنگ و هنر این مرزوموم برسد به دست هاالی همین حالیم که این روزها به جای آرامش و آسایش به جای بیمه و حمایت سنفی و نان و شعر و دغدغه فقط و فقط قبلی در قطعه هنرمندان است وزارت و صد دارد پیشکش ایشون در ادامه آی میزایینمند دماون در ادامی اشاره به دو تا از محسورین کرد که اونم به حال در نوع خودش از تریبون مجلس جالب بود. ربن استاد پیشکش شما در کصد نماد ترفیق حوزه و دانشگاه بیایید یک بار برای همیشه تکلیف ما را روشن کنید از نسبت حلال ها و راما و هنر به خصوص موسیقی. پاستاشت هنر سید معمار حسینی یرشا و بانوی مجسمه ی مادر در حس پیشکش که منظورش طبیعتا میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد بود خلاصه بالاخره آخرای این جلسه شیخ حسن روحانی هم اومد برای آخرین دفاع از وزراش و یه حرفی زد که بامزه بود برخی از وزرای ما اسامی در دنیا برند جذاب هست بله یعنی مثلا میری مهمونی میبینی دوستا چلوار جین پوشیده خفن بهش میگی چه شلوار خوشگلی برندش چیه میگه زنگنه میگی ولی این بیشتر شبیه لیوایز که میگه نه آخه اون شلوار مارک قدیمی ام ظریف بود مارکش برام تنگ شده بود رفتم زنگنه خریدم اینم حتما اثرات برند بودن بعضی از وزرای روحانی دیگه بر برحال ایشون برند بازه و بازم تاکید کرد تو این جلسه که من همچون وزیری میخوام حالا چرا دعوا داری شما بخواه خوب همونطور که گفتیم رأی گیری انجام شد 16 نفر از 17 نفر رأی آوردن نکته جالب از همه اینایی که گفتیم رأی آوردن آقای جهرومی وزیر مرموز و جوان ارتباطات بود هفته پیشم روش حرف زدیم بالاخره آخرش معلوم نشدیشون بازجو بوده قبلا تو کار شونود بوده شونود بوده چی بوده آقا فکر کن این هشل هفته سیستم این همه حرف و گپ پشت سر ایشون بوده از قبل این هم موافق و مخالف درباره حرف زدن تو مجلس خودشون هم که کلی سخنرانی کردن اما آخرش یه اشارم به این مسائل نشود اما بعد از وزیر شدن ایشون یه مصاحبه با خوانگارا در مورد توییتر داشتن که بعد نیست گوش کنیم به بخشیش خب وزارت ارتباطات که توییتر رو فیلتر نکرده که من بگم کی رف فیلتر میکنه طبیعتاً در واقع نهادی که تصمیم گرفته به فیلتر توییتر و نه برای می‌ده. این, این ملاحظات هم توییتر دارم از استفاده می‌کنم. بله بنده خودم هم توییتر دارم استفاده میکنم اما ابزار مناسبی است برای دیپلماسی عمومی برای برقراری ارتباط با مردم دنیا برای اظهار نظر تو موضوعات. به نظرم میرسه اینکه ما رسانمون رو محدود کنیم در تلگرام که فقط مردم خودمون هستن استراتژی خیلی خوبی نیست. اما واقعیتش اینه که دلیل فیلتر توییتر موضوعات اخلاقی یا موضوعات فرهنگی نبوده موضوعاتی بوده که مرتبط با حوزه امنیت ملی بوده بایستی مذاکره بکنیم صحبت کنیم قطعا ما تلاشمون می‌کنیم که صحبت بکنه و به یه جنبندگی برسیم که این انتخاب بله, بله. طبق معمول از اون جوابا که من نبودم دستم بود تقصیر آسینم بود حالا با آسینم حرف می‌زنیم با دستم صحبت می‌کنم ببینم در آینده ان تعالا چگونه خواهد بوده میباشد و اینها دقیقاً این هم ادب و ادبیاتی که مسئول جمهوری اسلامی باهاش میپیچونن از این بگذریم یه بحث دیگه هم در هواشی کابینه خیلی داغ شد و اونم ماجرای چادری شدن یه یوهوی خانم ریا جنیدی بود ایشون توسط شیخ حسن به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور انتخاب شدن ولی مسئله اینه که ایشون قبلا مانتویی بودن یعنی عکساشونو که می‌بینی خب همه مانتو تابشن و الان دیگه یه دفعه با چادر شدن معاون رئیس جمهور بعدم که یکی از خبرنگارا از این لعی خانم لایا خانوم میپرسی که جریان چادری شدنتون چیه ایشون میگن که آقای روحانی به دلیل پروتکل کابینه از من خواهش کرده این کارو بکنم منم به احترام ایشون چادر سر کردم اینم از اون نوبراستا پروتکل کابینه دیگه چه سیغه‌ای آخه این در مورد رنگ جراب وزران پروتکل پروتکل وجود داره بعد جالب آقای رئیس جمهور میخواد واسمون منشور حقوق شهروندی را بندازه ما مردم از حقوق شهروندی خودمون داشتیم داداش شما اول سراخای پروتکل کابینت رو بگی مجبور نشی سر خانمهای کابینت به زور چادر کنی حقوق شهروندی پیشکش. شما هم لایا خانم به نظر ما مقاومت کن چادر ننداس سرد اینو فقط ما نمیگیم ما. آقای مرداد آسمانی هم خیلی تاکید دارن روش و میفرماین چادر نندست سرد چادر نندست سرد چادر نداست، دشواری یاس نازکتری چه آنی نه دل بندد؟ چشاتو مسکن و چشاتو مسکن و بشکن سر اروت هر چی دیدی دی بی بخاطر خون را بندد؟ چادر نداست، چادر نداست. مامچش که میندازی بهش گردش که میندازی تو چشم مامچش که میندازی بهش گردش که میندازی سیا مست و اخوت راز میتونی خون را بندازی خداییشم چادر سرت و پیچه و بنداز. چشا چشا بشکن هر سر چی دیدی دی بی, بی چادر 29 آگوست سال روز تولد مایکل جکسون خواننده و رقصنده یه که دنیای رقص و موسیقی پاپ رو واقعا نمیشه بدون اون تصور کرد. کسی که لقب سلطان پاپ رو بهش دادن و اگر زنده بود پنجاه و نهمین سالگرده تولدش رو جشن می گرفت. مایکل جکسون با پنج تا برادر و سه تا خواهرش توی یه محلی کارگری و سیاه پوست نشین بزرگ شد و البته هیچ وقت به مدرسه نرفت و توی خونه خوندن و نوشتن رو یاد گرفت اما از همون کودکی استعداد زیادی توی رقص و همینطور خوندن داشت به طوری که از هفت سالگی خوندن و رقصیدن روی صحنه رو تجربه کرد و کم کم وارد دنیا هرفی موسیقی شد آلبوم ثریلر مایکل جکسون که تو دهه 80 میلادی منتشر شد تبدیل به پر فروشترین آلبوم تاریخ موسیقی جهان شد و بیش از 100 میلیون نسخه فروخت بعد از این آلبوم هم البته موفقیت های مایکل ادامه داشت و با ترانه هایی مثل بیتت، بیلی جین یا the گرل از ماین همیشه در صدر پر ترین ترانه های دنیای موسیقی بود مایکل جکسون یه زمانی گفته بود اگه با این احساس که دیگران عاشق شما هستند به دنیا بیاین و با همین احساس دنیا رو ترک کنین با هر اتفاق ناخوشایندی بین این دو زمان کنار خواهید اومد مایکل جکسون چقدر خوشبخت بود که با هنر و نبوغی که داشت میلیون ها قلب و عاشق خودش کرد و با این عشق زندگی،, زندگی کرد کار کرد رقصی ترانه ساخت و در نهایت نمورد که توی قلب دوستدارانش جاودانه شد تولدت مبارک پادشاه سرزمین پاپ فرشی سلام فرشی جان من رزا هستم از کانادا تماس میگیرم خدمت هست شد که به نظر من مشکلات شهری فقط مختص شهری مثل تهران نیست به نظرم همه جای دنیا همین مشکلات رو دارن شهرهای بزرگشون مثلا من توی مونترال کانادا زندگی میکنم وعض آسفالتی که اینجا داره بسیار بسیار افتضاحه. یعنی واقعا همه جاش داغونه یا کاره عمرانی که میکنن خیلی یواش خیلی... آهسته، سر حسنه، یه پیاده رو رو میخوام بسازن، یه ماه طول میکشه اینجا هم همینه بالا دیگه، با مثلا این پارسال زمستون ما یه برفی داشتیم که خیلی افتضاح بود اتوبان 13 اینجا بسته شد، از ساعت 8 شب تا صبح یکی دو نفر مردن تو اون چیز ولی شرطه این نتونست بیاد راه ها رو باز بکنه بله، خیلی ممنونم از تماستتون و از اینکه از مدیریت شهری در کانادا هم برامون گفتید تو خیلی جای دیگه همینطوری ما همین تو اروپا تو همین پراگ هم خیلی وقتا این مسئله داریم و وقتی یه جا رو میکنن دیگه میکنن میره برخودش خودش دیگه یه ماه چند ماه یه دفعه ادامه داره اما از شما سوال کردیم که با توجه به اینکه خب تو شهرهای مختلف ایران مدیریت شهری و شوراهای شهر دارن دست به دست میشن و آدمای جدید دارن میان سر کار گفتیم نظر شما رو هم در برای کیفیت مدیریت شهری در جایی که زندگی میکنید بدونیم و به اون بگید آیا احساس میکنید چیزی به اسم مدیریت شهری تو محل زندگی شما وجود داره یا نه حستون اینه همه چی ول شده به همون خدا و عزوجان دارن تو شورا و شهرداری اه... صفاشونو میکنن به جای شهر مثلا دارن رانتو بخور بخوراشونو مدیریت میکنن شهر هم همینجوری داره خودش به شکل هر هر دمبیلی برای خودش داره اداره میشه یا خیلی ها فکر میکنن اصلا این شورا و اینار که رانداختن را که تشکیلات ای باشه و یه عده‌ای مثلا بیان توش منافعی ببرن و فامیلی و رفاقتی و رانتی و اینار تضمین کنن یه دسته دیگه میگن نه اینجوری نیست یعنی توی شورا هم خوب هست نباید همین چیزو سیاه و سفید دید شما به اون بگید جزو کدوم دست هستید و نظرتونو با ما در میون بذارید دوستان خارج از کشور هم همطوری که قبلا گفتیم میتونن از سیستم عملکرد مدیریت شهری اونجا که زندگی میکنن. برامون بگن تا ببینیم مدیریت شهری ماه با خارجکی یا چه جوری دیگه چندیم. چند ایستگاه 500 از رادیو فردا.com ایمیل ماست، دو420 ۲۲ یا ازده ۲۴ 400 و 160 دوسه تلفن های تماس ماست همطور میتونید صداتون از طریق اپلیکیشن آS آی ایستگاه 5 شنبه و از طریق تلگرام. به گوش ما برسونین و همطور روی صفحه فیسبوک و یا اینستاگرام خود من میتونید برامون کامنت بذارید. Uh, you ها چیکار می‌کنین؟ من با شلوار مشکی تو با موهای زیتونی. Oh my god <laughs> i know inja is gohe panchambast خانم آقایان دختر خانمها آقا خوب به صروش آن اندیگن ایسکو پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم ساعت چهار دقیقه هست. هم که میدونید بلکه دیروز شهردار جدید تهران رسما کار خودش شروع کرد. شهردار جدید پای تخت یعنی آقای محمدالیه نجفی کسی که یادتون باشه زمانی وزیر آموزش و پرورش بود و تو اوایل دولت اول شیر خزانم رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد ولی به خاطر بیماری استفاده. همون موقعی که حرف شهردار شدن ایشون بود تو توییتر کاربری به نام کومیل توییت کرده بود مگه محمد علی نجفی به دلیل آرزه قلبی و ناتوانی جسمی از ریاست میراث فرهنگی استفان نداد این آدم چطوری میخواد شهردار تهران بشه یا مثلا با توجه به آقای نجفی تو دولت جدید روحانی خیلی طرفدار داره. اماد توییت کرده بود چطوری یک نفر همزمان برای تصدی ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزیر آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران مناسبه؟ البته آقای نجفی اون موقع که رئیس گردشگری بود، یه نظرات با مزه‌ای هم تو تلویزیون در باری داده بود که می‌تونیم پیش‌نویسشون. اما در مورد قلیون من حقیقتش موافقم. در بعضی از مویتا ببینید آخه ما محدودیت هم که ایجاد می‌کنین سرجامش رو نگاه بکنیم. ببینیم برای مردم چقدر امکانه. تحرک و تفریح و حتی نفس کشیدن باورشتم و این که حالا میگن خانما نگشن آقای میشم من با اینم مخالفم اخه <تصفيق> من نمیفهمم یعنی چی اگه من مثلا با همسرم یا با دخترم <تصفيق> رفتم قلیون میشم حالا ای دو پوکم اون بیزه چه اشکالی داره <تصفيق> بله حالا حداقل دیگه قلیونیهای حرفه‌ای میتونن امیدوار باشن که حالا که آقای نجفی شهردار تهرانه شه شاید اصلا یه میدون بزنه وسط شهر به اسم شهدای یا چه میدونم بزرگرا بزنه به اسم یادگار قلیان <laughs> یا اصلا اتحادیهی قلیونی های مقیم مرکز رو تحسیز کنه یا شاید مجووز احداث برج بده به شرط اینکه برج به شکل قلیون باشه حالا اینکه دیگه طعمش دوسیب نعنا مخلوط باشه یا آدامسی دیگه باید باید ببینیم چی میشه دیگه آقا زغالو به چرخون بزن به به چرخون زغالو زغالچی از بروج عجم خدایا من به هر محفل غریبم ندارم میل دارو کو hapi bab sax be kore sax tu sauze madame دوده d'ye doudet aussi bab mi all ti spreger du so baz du no be cha kho به bi a ta kam be کست داری همش سوختم جذب دل دسرش بد والله رفتم تم زندگونی ای زغان چیموتنبی کی انتادی شو بیا آتیش بگردون خب در خدمت جناب دکتر، مهندس، پروفسور جلال سعیدی متخصص آشمونم. چسب هستیم امروز <تصفح> خیلی تخصص نچسبیه <تصفح> متخصص چسب <تصفح> متخصص چسب آره متخصص چسب هستن امروز امروز و مخوام ببینیم که راجب چسب هل چی دارن برامون بگن What the hell What چسب هل چسب هل خیلی این هفته داستان زیاد بوده اونهایی که خب توی فضای مجازی هستن حتما ترکشاش به گوششون خورده یا دیدن اکسی فیلمی خلاصه چیزی از این چسبه هل شاید دیده باشن اونایی که ندیدن هم الان دکتر اینجا هستن که کاملا توضیح بدن راجبه به بحث چسب چی بوده داستان چسب؟ پنشنبه هفته پیش در حینی که برنامه ما در حال بستالا پخش شدن بود در حال اجرا بود نمی کدوم شیر پاک خورده ای این عکس اولین عکسی رو که جنجال درست کرد و پیدا کرد تو فضای مجازی و تو فضای توی اینستاگرام و توییتر و تلگرام و اینا به شدت پخش شد اون عکسی بود که توی نمازخونه طوری حالا ما هم داریم اینجا پرینتش رو که یه سری دارن نماز می‌خونن با لباس کار و اینا و یک تابلوی اون بالا هست که خیلی خطونشون کشیدن اونجا برای کسایی که نماز نمیخونن یعنی کارکنانشون که نماز نمیخونن من این تا رو بخونم بله. نماز از مبرخه فلان برای تمامی آقایان اجباری شد در غیر این صورت مشمول اکسل عمل خواهند شد که حداقل آن جریمه 120 هزار تومانی میباشد و یا اخراج میشوند و همچنین در وقت نماز کلیه آقایان باید بعد از شنیدن الله اکبر در نماز اقدام بوجودان حالا آره. چیزای دیگه دیگه حالا همینجوری تپسر هم و اینا داد آره بعد دیگه حواسا رفت سراغ این ش... چسب هلو این که اصلا کیه مال کارخونه چسب بله. هلو بوده بله کارخونه در, در, در اطراف تبریز اگه اشتباه نکنم و دیگه رفتن ملت سراغ این که اصلا مدیرعامل این کیه کلا چی میگذره تو این کارخونه و خیلی اکتشافات عجیب و غریبی یا حتی همین الانم همینجوری فعالیتش ادامه داره من رفتم تحقیق کردم یه سری قوانین دیگه هم تو این کارخونه دکتر تحقیق کردن بله, بله. تحقیقاتشونو <تصفيق> آ... یه آقای به اسم خلیل نظری مدیر عامل و صاحب کارخونه یک جوان متولد ازار که ادعا میکنه که اصلا من چیز ندارم من اصلا مف... نفع مالی این کارخونه برام مهم نیست و من برای نماز این کارخونه رو اصلا اتاس کردم کلن این کارخونه رو زده بر نماز آره که اتفاقا یک، یکی،, یکی،, یکی تو تویتر بشت گفت خب اوکی اگه میخواستین برای نماز بعد میرفتین مسجد میزدی نه برای <تصفح> نماز بری کارخونه بزنی ایشون کلا یک پدیده اصلا خیلی شبیه آقای اون <تصفيق> رهبر کوه شمالی یعنی اصلا عکسایی که اومده بیرون چیزایی که پخش شده تو فضای مجازی عکس تولدش هست بعد همونو مقایسه کردم با یه عکسی که مثلا یه تعدادی از این شهروندان کره شمالی و, و نیروهای نظامی دوره آقای اونن و دارم مثلا میخندن و نمی‌دونم خیلی خوشحالن دقیقا این عکس‌ها رفتن یه تولدی تو کارخونه همین آقای ملکی هست که همین جوریه نظرش هست آقای نظری, نظری درسته یه کلا از این کلا بوقیا سرش گذاشته کارمنداشم کار دورشن همه دارن یه <تصفح> بعضی اصلا خیلی چیزه تاج سرش گذاشتن یه دونه هست که تاج قشنگ شبیه تاج درست گذاشتن آره بک اینقد یه کیک به چه گندگی کل کارخونه و تولد دکتر ملکی حالا سر مدرک تحصیلی سر اینکه اصلا این جوون متولد 1960 این همه پول مثلا از کجا داره تو که تازه میگی اصلا درآمد این کارخونه برای مهم نیست همین شباهت کیم جونگ اونم بهش میگفتن کیم جونگ هل آره کیم جونگ تل <تصفيق> به مثلا یه سری قوانی دیگه گدشته برای کار... کارگرانش که مثلا صحبت کردن و نظر دادن در کار دیگران ممنوع است پوشیدن لباس گرم در زمستان الزامی است و تقاضای بخاری پنه ها در صورتی پذیرفته می شود که شخص لباس مناسب پوشیده باشد <تصفيق> یعنی شما اگه سردت می خوای بری بر مثلا سر کار دیگه آقا من بخار می اول میان نگاه میکن چی پوشیدی چی <تصفيق> پوشیدی اول آره یکی دو, دو تا سه تا بعد سه سز لایه پوشیده باشی بعد دا. مثلا سه لایه بالا اگه پوشیده باشی باوزم سردت باشه خب آذر باجرام سردت دیگه خب یا این خیلی جالبه که گفته کارگران در صورت فرار بی‌موقه هنگام آتش سوزی اخراج خواهند شد یعنی آتیش سوزی شد در نریم یعنی اول وایسی ببینید چقدر بیسوزین بعد حیط مدیره تصمیم می‌گیره که فرار کنی یا نکنی یا ذره پیچیده است بازی یا یه سریعه یه من هم عکس تومان دیدین همه که مثلا دارم ورزش میکنن خیلی در صفوف منظم این پادگان همه کارگران زن و مرد مثلا در کنار هم دارم ورزش میکنن اونم گفتید گفته هنگام ورزش سر کارکنان باید پایین باشد و فقط حق دارم می کسی که تمرین میدن نگاه کن والا ما سربازی رفتیم تو سربازی سربازی همین نگاه کن اونم به گای وقت این به من نگاه آه این خیلی خوبه ببین یکی دیگه هست این می‌خواد شما بخونه اینو من افتخار خوندن مکالمات تلفنی رو مکالمات تلفنی کارگران زبط می‌شود و هر سه ماه یک بار به صورت تصادفی در سالون پخش می شود پس کارگران باید مراقب مکالمات خود باشد یا خدا این فیلم های علمی تخیلی هست مثلا کارخونه های مثلا ست سال دیگر را نشون می یه مش روبات دارن کار میکنه یه صدای ضبط شده میاد همه راه می میرم به یه سمت دقیقا همونه یعنی مثلا یکی دوست دختری، زنی، مثلا همسری کسی داره مثلا داره قربوسه همرو... درش میره یا پخش میشه میکنن <تصفيق> <تصفيق> بابا این چیه باقی من نمیفهمم آره دیگه ایشون دکتر خلیل نظری اینستاگرامشون این نوشته مختره نویسنده و کارآفرین برتر هستن به که حالا بحث دکتراشون حالا خیلی جالبه بحث دکتراشون اذا بده من مدرك دكتوراشون هم دارم اینجا بله من این وسط یه توییتر بخونم امام دکتر مستر مایند گفته داستان چسبهل اگه مارمزون اتفاق می افتاد الان خلیل نظری مهمون ماحصل بود با هم گریه میشه؟ آسیپلیکوتا آره ماشاءالله ایده آره بزن. آیدی توییتره الان گفته که الان داره یه بند به قراردادها اضافه میکنه که دست به دست کردن جوک دکتر خلیل نظری مشمول واکنش می <تص> خب دکتراشون بخواستی آره مدرک دکتراشون ایشون خودشون گفتن در یک مسابقه ای که من متولد نه، اینجا گفته که دانشوی کارشناسی فیزیک بودم آها. به دلیل مشقله نتنم درسم تام کنم درس نخونده ولی یعنی. دوستان از کارخانه خوششان آورد و من دکترهای افتخاری دادن حالا یک دانشگاهی هست به اسم دانشگاه علوم و فنون فارابی امه. به ایشون دکترهای داده بعد ایشون دیگه کجا هست اصلا این از کجا نمیدونم. ایران, ایران هست هست دیگه یه دکترا افتخاری همجره. یه چیزی بهش دادن یه دیپلم افتخار طور یه... یه چیزی مثلا هر کسی میتونه برای اینو چاپ کنه مثلا بر... بزنه من دکترای افتخارم کلی خودش هم واکنش نشون داد بعد از این جوک ها آره آره ما صداشون هم داریم و مثلا ایشون خیلی معتیده که کار کارکنانش خیلی به... به کارکنانش خیلی علاقه داره و به نظر گوش بینیم. بعد صحبت کنیم <تصح> دربارش بنده اصلا عاشق خدا و کارکنانم هستم و فقط برای آنها به کارخانه می گرم. مگر بیش از سه وعده قضا می خورم که برای پول و ریاکاری کار کنم. در غیل این صورت میرفتم خارج و موهایم را در این راه سخت سفید نمیکردم. تک نکنید به من لطمه میزنید. نیازی به پول ندارم خدار شد ولی کارکنان چه گناهی کردند. <تصفيق> یعنی کارکرانش هم عب استفاده ابزاری بیکنه برای که بهش آسیب ندارن یعنی من اوکیم من خیلی پولدارم و خدا رو شک بد جور آدم عجیبیه یعنی اصلا, اصلا ندیدم و نشنیدم و تازه میگه که آقا متولده 160 میشه چند سال؟ میشه مثلا 35 سال 4 س... سا... سا سال 5 سا... سا... سال. سال،, سال میگه که کارکنان هم و من میگم پدر حالا میتونیم فایل بعدی رو بشنبیم <تصفح> چرا از عکس تولدی که کارکنان هم بدون اطلاع من کی خریده و برایم جشن تولد گرفتن سو استفاده میکنید برخی از آنها حتی به من میگویم پدر بله ب... البته کارکنان <تصفح> <تصفح> و کارگره رو ما دیدیم البته ها خیلی خب سنین بالاتر هم هستن آخه من نمیدونم چه جوری ایشون یه اتفاقا تو همین در یاریه آگاهی از از ایشون آگاهی استخدام داده بوده برای استخدام نیرو برای کارخونش اه. که 600 نفر فقط خانم مجرد استخدام میکنه خانم مجرد آره یعنی اصلا کار مجرد است و یه یه چیز هم هست اینجا یه چند تا مثلا رشته تخصصی هم هست نوشته 3 نفر لایکچری فضای مجازی چیه بعد این لاکچری گفته که تسلط کامل به شبکه های اجتماعی بازاریابی و جذب مخاطب فعال و تولید محتوی مناسب یعنی شاخه‌های اینستاگرام، شاخه‌های اینا رو میخواد چیز اینا رو میتونن با مورد لاکچری فضای مجازی برن حالا توی توییترم واقعا یه چیز گفته گفته آغازاده چی کارن؟ نوشته توییت کرد، آغازاده چی کارن؟ لایک چری دنیای مجازی پست های حضرت جناب دکتر خلیل نظری رو لایک میزنه دقیقاً یعنی استفاده میکنه احتمالاً لایک لایک زن استفاده میکنه جناب دکتر البته کتاب هم چاپ کردن نگو نگو جایی کتاب چاپ کردم با عنوان چگونه با پول حلال بیلیاردر شویم یا میلیاردر یا بود... بیلیاردر ایشون نوشتم میلیاردر رو جلد کتاب عکس بود نصف جل کتاب عکس تاسی خیلی علاقه داره به تسب ببین یعنی مثلا عکس <تصفح> هست بیلبورد بزرگ تو مثلا خیابونا تو جاده ها و اینا زده مثلا چسب هیل فلان فلان فلان فلاً یه... خودش هم عجیبه یعنی به طرز عجیب این یکیش مثلا اینه یک چیز کردن یک فراخانی داده گفته تنها محصول در دنیاست. چسب هل که امکان ساخت تقلبی آن وجود نداره حتی در چین و آمریکا و به کسانی که موفق شدن این بستبندی محصول این تورید کنن این یعنی چقدر یک میلیون؟ ده میلیونه؟ ده میلیون آره تومان جایزه, جایزه تقلب میگیرد عکس, عکس تمام قد استاد تو دست تو جیب و با کچه الور کراوات وایستادن ولی با این وجود ایشون علاقه به این که به ثروت علاقه داره ولی میگه که به تجملات هم علاقه زیادی کرد. من با اشرافیگری مخالفم برای همین مبل را از تلا نساختم ولی اعتقاد دارم اسلام دین ثروت است و از دری که فرق وارد شود از آن خارج می شود و خوب ماشینی مانند بنز موردی ندارد و وقتی اصلاف می شود که مانند برخی بر روی آن الماس می چسبانند و باید انفاق کرد بله ایشون یعنی گفته که من ببینیم چی بوده که من ببینیم مبلم و تلا از تلا نساختم رو بهنز نق... چی بود؟ می میچسبونن آره نمیدونم یه همچی چیزهایی گفتی ما ناییدیم تلاهیشون لنه البته آقای, دو... آقای دکتر هستم آقای دکتر, دکتر هستم ناصر دیشنا توییت کرده اگه دقت کنین چسب هل در واقع جمهوری اسلامی در مقیاس خیلی کوچیکه. بale دیگه ایشون همیشه هم افتخار میکنه به اینکه از توی خانواده خیلی معمولی به اقتصادی پدرش مثلا مثلا یه کار خ... یه پدرش یک چیز داشته مغازه مثلا رنگ و ابزار و این چیزا داشته عجب. و حالا خیلی ها مثلا یه سری تو همون توییتر توی فضای مجازی گفته بودن که مثلا خب این چیجوری میشه که این حجم از ثروت ایشون حتی مدعیه که میخواد بزرگترین بنای بشریت رو بسازه حالا آره. ایشون این باره هم بزرگترین تا بنای تاریخ بشریت را به هول و گوی الهی خواهم ساخت و این بنای بزرگ به شکل مسجد را به فقرا خواهم بخشید بله و منم ظاهرا میخواد شبیه هل اینم چ... م... لوگوی هل باشه یا همچین چیزی باشه یک زمینه شبیه... من م... 1500 هکتار چه چیزی عجیبی رو که قصد داره که آلو. بزنه یعنی کارخونه ب... ب... ب... ب... بسازه توش بعد بب... بزرگترین بنای بشریت رو بسازه کلا تو کار رکورد زدنه خیلی علاقه داره که رکورد های جدید از خودش ثبت کنه اینی که ب... گفته بودی که آگهی استخدام برای خانمای مجرد داده بود یه جایی هم من دیدم گفته اصلا تو قوانین خاص خانم معتاهل اصلا چیز نمیکنه استفاده نمیکنه به خاطر که میگه اصلا یعنی چی خانومی که زده آ... کرده اصلا نباید کار کنه آره ات... باید بشینه تو خونه بچه این داره اینو به نظرم خوشبینانه شه الله <تصفح> <تصفح> توی اله <تصفح> اله چیزاش موارد... نه من دیدم تو چیزاش خوندم اصلا توی اه اه... ی... آره یکی از یکی از چیزاش همین بود یکی عزده. از تپسر های قوانینش این بود که خانم متأهل رو اصلا استخدام نمی در به نظرم بیا بریم تو کار چسب بریم تو کار بزنیم تو کار چس خود خدا, خدا الان الان الان اگه رفتو دیدیم تو کار چس چس بودیم به یک جای خوب الان خیلی وضعیت بهتر بود خلاصه که مریض منظور حالش خیلی بده <تصفح> خیلی خیلی و ما فقط میتونیم که آرزوی سلامتی بکنیم و امیدواریم که حالشون خوب شه و, و, و کلامونو و بچسبیم <تصفح> بچسبیم کلامونو و خیلی متاسفیم برای اون کارگرایی که دارن البته زیاده ایشون تو اون کارخونه کار میکنن ولی زارن یه واکنشایی هم داشته ایشون یه اتفاقی افتاده از از, از, آره، از وزارت کار یک معاون وزیر کار یک نام... اخطارهایی زارن دادن که آقا بشن. اصلا نماز رفتن از صحبت‌های خود آقای خامنه‌ای اومدن که آقا اصلا نماز چیزو توی نماز جماعت توی تو هم نباید اجباری کاره. درسته در عمل ات... اتفاقات نماز جماعت می برگزار میشه ولی اینجوری که توذ قانون تو بذاری و اخطار کردن طرف آره. اینا میگم درسته که شما اگه بخوای تو ادارات ایران پیشرفت کنی حتما باید سری کارا رو بکنی و یه سری جان نمازارو آب بکشی ولی نه اینجوری به تابلوی دیگه بالاخره اینم از آقای خلیل نظری خب دکتر دیگه چه خبر خبر سلامتی می‌خوام دوباره لیگ بازم صحبت کنیم راجب لیگم یه بچسبیم به خوبت لیگ بچسبیم به لیگ و بعدش دیگه بعد بعدش هم بعد بچسبیم به برابر که... و اینا الان که تا اول سپتام تمدید شده خب میتونیم بگیم الان میتونن دوستان همین سوژه به این خوبی خدا دی قل هم بله. قل قولو... قول... همین چسب هلو بگیرن برن جلو برن جلو. <تصفيق> من یه نکته میخوام بگم یک دو تا از کارایی که فرستاده بودین رو حالا آپشنیدم یه چیزی بگم همین همینجوری فقط حرف میزنند دیگه همینجوری برای ما هم تو خودشون میگن ما این که خب نمیشه برنامه رادیویی آیتم تنز خلاق اسمش رو گذاشتیم نمیشه بعد یه خورده بیشتر فکر کنید یا مقداری باید به نظرم خلاقیتتون رو یه خورده بیشتر قلقلقک بدین و یه کارای بهتری برنامه بفرستین دیگه تو نظری نداری راجع به لیگ چیزی نمیخوای بگی؟ نه نظر همین دوستان من بازم چند تا پیشنهاد بازم گرفتم واقعا دیگه دی دی دی دی دی میگم دوستانی بود که پیشنهاد داری که اگه میشه بابا کمک کن بابا خلوشیخی کردیم <تص> ولی به نظرم همین اتفاقات روزمره بهترین روزمره که مشااله همین جووری هم ازخبرها با اتفاقات میزنه و... فضای آه... هم سیاسی هم فضای اجتماعی هم میگم چسب هل من راه نمایی میکرد چسب هل بیشتر <تصفح> استفادهکنه نه خودش من برامون آه... کار تنز که میفرستید حتما برامون رزومتون رو بفرستید یعنی تا چیز مهمه حتما رزومتون به همراه کار آیتم رادیویی و همینکور مدرک اقامت, اقامت. اقامت که بتونید به اروپا سفر بکنید ممنونم ازت من خدافزی میکنم خدافزی میکنم از دکتر چسب کنم به من برومد چکت بند تر اود باقبطب اومدم ما برو نیومد خ به مكتومد، بوربه به مفدقولام به مرکب اود دازاب نیومد، اوتل باتلد درف فد میشت مشت خزی نود شام به سر نیومد. به منظر اومد لا به موض اومد خاص به سنگر اومدده جا بلببر اومری دست و سکون نداره میل پشت نداره اون خورده و جون نداره بابا نداره نداره نداره نه این دست و سخون نداره میل پشت نداره اون خورده و جون نداره بابا نداره نداره نداره آتش به خمن اومد قرار به بهمن اومد شاق به سر در اومد را به سر نی اود هیرونو و اییرون زیر به کمون اومد سنگز گردون اومدین جا به سر نی اوم ز به اومد به اومد دور به تجرار اومین نام بهرح نیومد گدا و پرش اومد به نورا اومد شم به تو دست بسر نایمریم دستو سخون نداره میل پشتوون نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره نداره نداره نداره دستو سخون نداره میل پشتوون نداره نو خورده و جون نداره بابا نداره نداره نداره نداره نو تو جلو به رقت اومده کاو به سر نی اوم نختتر رممت <متحن> اومهطوررف به جنت اومله خاکی به سربر اومد به پچره اوم به تچ اومد خ به در نی اومری ها بر نیوم ها بر نی اومریشاو به سر نیم مریوا دست نداره بوم نداره و جون نداره بابا نداره نداره نداره نه دست و نداره نداره خورده و نداره بابا نداره نداره نداره نه دست و نداره نداره خورده و نداره بابا نداره نداره نداره ایستگاه پنجشنبه هر <تصفيق> شو هما فكرت لي لي لي ما تواصل لو بقى با ما شين شريت الكمشان دي كاريش دوميده ميا ما تصم ما الدنيا شو باشو وما فكرت لي لي لي ما تواصل لو بقى با حالتك ما شين مرشید عزیز من فکر می کنم که عزرت آقا عزمای ولایت عادت داره به سیلی زدن به مخالفان بله تو تمام صحبت هاش کنی کلمه سیلی و به یه آبتاب خاصی به کار میبره. بله. از دیدگاه من دادن حکم به این اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یک سیلی محکم بود به اعتدالیون و اصلاح و آوردن قالیباف آوردن رئیسی آوردن اوس عمود و بقیه این دربوداغونا همه دهنکجی بود به رأی مردم و سیلی بود به آقای حسن روحانی موفق باشید پیروز و سربلند ممنونم از تماس شما با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا زنده با شما این پنج و شانزده دقیقه است دوستان حتما یادتونه که هفته پیش ماجرای احتساب قضاوی مهدی کروبی حسابی سرسوزو کرد بالاخره کار ایشون به بیمارستان و سی سی کشید و در نهایت همینجوری اعلام شد که وزیر بهداشت و یکی از معاونین وزیر اطلاعات رفتن بیمارستان دیدن ایشون و در نهایت یکی از خواسته های کروبی رو برآورده کردن تا ایشون دست از احتساب غذا برداره داره خواسته ای اول ایشون این بود که مامورین مراقبشون از تو خونه کروبی برن بیرون و تو حلقه ایشون به مراقبت نپردازند. دوم میشم این بود که دادگاه علنی برگزار بشه و ایشون بدون محاکمه حصر نکشه ظاهرا تو دیدار وزیر و معاون وزیر با ایشون با درخواست اول موافقت شد درخواست دوم هم خب ظاهرا گفتن حالا یه قولهایی داده شده در خصوص درخواست دوم خلاصه اتصاب قضا تموم شد تا یهو این هفته آقا ایجی ای یکی از همه کارهای قوه قضاییه در جواب خبرنگاری که ازش پرسید حالا شرط اول که برآورده شد شرط دوم کی برآورده میشه کلا از بیخ عرب شد و فرمود چی گفت اولیش عملی شده <تصفيق> <متحق> نه خاص این چیزی نیست این دروغ محضه که واسه منتشر کردن بله ایشون در ادامه طبق معمول توضیح دادن که هست مصوبه شورای عالی امنیت ملی کشور البته ما نفهمیدیم مصوبه کجاست چون حاجا آقای ژینا میگن مصوبه همین شورای عالی امنیت ملیه شیخ حسن اینا میگن نیست حالا جالبه که فردای همین مصاحبه همین سوالو و خبرنگار رو از آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کردن گفتن بله بله کاملا شرطای کروبی اجرا شده. علی آقای متحری هم که خب از بد تولد ولکن این ماجره هست نیست نامه نوشت به اجیجان که ای شیخ اگرم مصوبه ای بوده تو شرای امنیت ملی کشور مال همون زمان درگیریا بوده تا عبد نمیتونی بر اساس اون مصوبه اینا رو تو هست کلن ما و شما میدونیم که همه این بازی ها برای اینه که حواسها رو پرت کنن چون تصمیم گیرنده اصلی در این مورد معظم لهه شورا پورا چنده در ادامه هاج آقا اجی شلنگ گرفت به سمت شیخ حسن و یک حمله ددمنیشیانی همچنین آوریندار جن خوبطور کرد و ایشون که آدم اصلا در خود فرو میرفت شنیدن حرفاش بعض از افراد اصلا کاسبکار سیاسی هستن دروغ می گند. خلاف میگن دلشون هیچ وقت به حال یک زندانی نمیسوزه دلشون به حال یک فرد محصور میسازه به فکر منافع جنااحی و سیاسی خودش هست او او, او حال شما اسم وردی آقای ای ولی خب تختگاز گاز تو تهش رفتی دیگه. دیگه اینجوریه کلن از دولت که رفته تا قوه غذایی اصلا به تنها چیزی که فکر نمیشه مسائلی مثل رفع حسره اون از روحانیش که تو انتخابات غیر مستقیم وعد وعید میداد الان به جاش نیست اینم از باقی قوا و ارگان ها که اصلا آتیش بیار معرکن کلن به اینا باید گفت به خیر تو امید نیست داداش شر مرسان شما دستم درد نکن وال. بابام نمیه یادت دل پریشونم که از بابام نمیه یادت صدا اما بابایم کجاست اما بابایم کجاست اما بابایم کجاست اما بابا دل پریشونم که از بابم نمیه یادت صدا دل پریشونم که از بابام نمیه یادت صدا اما I am kojas and never I am kojas and never I am kojas and I am گردم زدشته کربلا من نمیخوام جدا گردم زدشته کربلا همه بابایم کجاست همه بابایم کجاست همه بابایم کجاست همه بابایم همه میسوزد دلم بابم چرا نم 28 آگوست تولد شنایا توین، تران سرا و خاننده سرشناس کانادایی که یکی از شناخته شده ترین و ترین خاننده های زن موسیقی سبک کانتری توی دنیا به حساب میاد از شنایا از سال 1993 تا امروز پنج آلبوم منتشر شده ما هم به مناسبت تولد این هنرمند میتونیم با هم یکی از کارهاش رو به اسم I Ain't No Quitter گوش بکنیم He drinks, he smokes, he cusses, swears, he tells bad jokes, he rules and he writes, he lives like facts and he loves to fight, he's a loser, a loser, calls me up when he's too much, he's Flirts too much, and he loves blonde chicks. And he's dressed, and he's strong, and he looks so cool. And yeah, he nose he's a beauty, a cutie. His body rocks, and the girls they flock. He's addicted, addicted. I tell him. گاهی بین هانا این هانا کاویانی این مناظریه دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟ ادمت قلبی که ما ادمت قلب کلیسوردی. ادمت قلبی که ادمت قلبی که ادمت قلب کلیسوردی. ادمت قلبی قلبی ادمت قلبی فرشید خوبی خوشحالی امروز یا نه ناراحتی هم همچنان خب معمولی ام <تصفح> خوشرنگی ولی امروز ما, ما اینستاگرام لایو نمام خراب شده صدا نداشت قطع کردم ولی میخوام بگم اونایی که نمی بینن ما رو هانا ولی خوشرنگه امروز لباس خوش رنگ خیلی <تصفح> خوش اومدی هانا مگه قرار نبود نیروهای آمریکایی از افغانستان برن الهستند هنوز ببین اینو آقای ترامپ رئیس هم. جمهور آمریکا این هفته اینطوری توضیح داد که اومامولان سیاستاش رو غریزی انتخاب میکنه اما به هر حال هر کسی که وارد کاخ سفید بشه پشت صندلی ریاست جمهوری روی صندلی ریاست جمهوری بشینه پشت صندلی نه روی صندلی ریاست جمهوری آمریکا روی صندلی ریاست جمهوری جمهور آمریکا بشه و با واقعیات پشت میز به هر حال اگر که یه پنججوره پوستشه و تغذیه و تغذیه و تغذیه و تغذیه و تغذیه و تغذیه و تغذیه و تغذیه و تغذیه و تغذیه آره. به هر حال اگر که رئیس جمهور آمریکا با واقعیات میدانی رو به رو بشه و با به هر حال چالش هایی که باهاش مواجه هست روبرو بشه تصمیم های متفاوتی میگیره این رو خودشم آقای ترامپ لابرش صحبت کرد و به خاطر همین چون میدونی که هر رئیس جمهوری که میاد دستور بررسی سیاست های اصلی رو میده مثلا الان دارن راجب ایران هم همین کارو میکنن درباره مورد دیگه هم در مورد افغانستان هم به دلیل طول شدن جنگ افغانستان آقای ترامپ دستور بررسی سیاست ها رو داد سیاست ها رو بررسی کردن گزارش دادن بهش و نتیجهش این شد که این هفته آقای ترامپ اومد گفتش که ما از این به بعد بر مبنای زمان و اینها برنامه ریزی نمی کنیم بر مبنای اون شرایطی که در میدان جنگ وجود داره برنامه ریزی می کنیم یعنی نمیگیم که ما یه سال نیم دیگه از افغانستان میریم بلکه ممکنه تا یه سال نمه دیگه تعداد نیروهامون رو افزایش بدیم. بدیم در مقطعی افزایش بدیم در مقطعی کاهش بدیم و میگه که اگر که ما ب... بگیم اعلام بکنیم که کی می بریم اون وقت اون افراد مسلح نظامی مثلا طالبان یا الان که اناسوری از داعش هم در افغانستان بله. فعال هستند، اونها اون وقت میدونن که برنامه ما چیه و اون وقت گیر نمیشه آره از همین جهت یک سیاست جدید رو ارائه داده و میگه که ما اینطور عمل خواهیم کرد بر مبنای شرایط عمل خواهیم کرد همچنین یه تلنگور سفت و سختی هم به پاکستان زده حال میدونید که پاکستان خصوصا مناطق شمالیش که هم مرز با افغانستان هست اونجا از اونجا خیلی از این نیروهای طالبان به سمت افغانستان میرن در اونجا عملیاتی رو انجام میدن در نقاط مرزی نامام ایجاد میکنن. خلاصه به تاک تاکستان نه به پاکستان امروز اصلا بس خرابا به پاکستان هم میشه حالا فکر که شرابی و یه چیزی از تاکستان در نه ولی به پاکستان خلاصه هوشدار داد که ام باشه که اگر که اقدام نکنه مبارزه نکنه با این نیروهای طالبان که در مناطق شمالی این کشور خصوصا پناه گرفتن آمریکا به هر حال میدونی که روابط استراتژیک و مهمی رو با پاکستان داره پاکستان کشوریه که آمریکا هم رابطه امنیتی قوی داره به هر حال کشوریه که در اختیارش بمب اتم هست یعنی خیلی رابطه ای داره آمریکا با این کشور که صمبون اون کشوریه که اگرچه که عضو پیمان آتلانتیک شمالی نیست این پیمان نظامی عضوش نیست اما به عنوان متحد این پیمان هست عضو نیست اما متحد یعنی خیلی جایگاه امنیت نظامی مهمی داره تو دنیا برای همین حالا آمریکا داره بهش فشار میاره که اگر نری با طالبان مبارزه نکنی خلاص اتفاقایی ممکنه بیفته این پس فعلا نیروهای آمریکایی فعلا در افغانستان خواهند بود و ممکنه حتی بیشتر هم بشن بله. نماینده آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی رفته به ویان و راجب ایران حرف زده بله خانم هیلی قرار بود که بره گفته بود دیروز رفت به ویان مگر راجانس با یکی دیدار کرد و اونطور که خودش گفته بود قرار بوده که بره از مقام های آجانس بپرسه که آیا برنامه هسته ایران رو درست بازرسی میکرن یا نه؟ آیا همه چی رو بر مبنای برجام پیش میبرن یا نه؟ به روح برجام مثلاً اعتقاد دارن؟ حالا روح... <تصفيق> عمل میکنن یا نه؟ آره. روح برجام البته مساییست که به آجانس رب نداره آجانس خیلی به چون به مسایل تکنیکی و فنی و... آره کار داره دقیقا به جسمش کار داره به جسم اه... تحصیصات هستهی آره، آره. ایران و آره. تعداد سانتریفیوش ها و میزان اورانیوم قنی شده میزان آب سنگین تولید شده همه اینها رو چک میکنه و حالا ایران گفته که همین اقدام خانم که رفته و چنین سوالاتی رو مطرح کرده علیرغم اینکه آژانس گزارش میده و میگه که ایران پای بنده به تعهداتش این خودش اوی گفته که این حسن نیت طرف مقابل رو نشون نمیده که شما سوال مطرح بکنیم وقتی که ما داریم کارامون رو میکنیم اما از اون طرف هم خب به هر حال خان محیلی در راستای یک برنامه دولت دونالد ترامپ داره کار میکنه همونطور که راجب افغانستان دارن بررسی میکنن ببینن که سیاست ها چطور بوده در برجام هم همینطوره و دارن برجام رو بررسی میکنن ببینن که آیا آ... همه ی جوانبش به نفع آمریکا هست و در راستای منفع آمریکا هست یا خیر و این اقدام خانمهیلی و دیدارش با مقام های در راستای اون بررسی است که حالا احتمالا تا یکی دو ماه آینده باید نتیجه اون بررسی هم اعلام بشه ممنونم هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر فالو کنید با شناسه هانا کاویانی تا هفته آینده مرسی سلام عرض می‌کنم مدیریت شهری داریم هم داریم نه که حالا خوبه خوب مدیریت شهری برلین و ونکوورو نمیدونم ملبورنو نداریم. اونم که گفتم. مثلا بازش. بنده که الان در اصفهان هستم بره. همه چیز خوبه همه چیز مرتبه یعنی شهرداری چیزی کم نذاشته حالا جدا از سیستم حمل و نقل اومی میگم ولی خب همه چیز خوبه نسبتا درسته حالا یه سه چیزایی باگایی هست ولی بد نیست ولی میدونی چی بده اون بده؟, بده؟, بده که همه این کارا رو میان میکنن نمیدونم خیابون درست اتوبان درست چراغ درست پارکینگ درست بلد. همه این کارا رو میکنن ولی بلد. خب فرهنگ استفادهش نیست عزیز من پارکینگ گذاشتن 2 متر جلوتر آقای اومده دوبله پارک کرده خب من چیکار کنم من خب هرس میخورم اینا رو میب. خلاصش این که آخو. ما یه مدیریت فرهنگی لازم داریم برای شهرمون هر از این سطح آشغالات که گذاشتن مردم استفاده کنن نمیدونم دیگه دارم هرس میخورم فرشید جون چقدر هرس بخورم فرش جون هرس نخور بابا جان هرس نخور فرید جان چرا هرس می‌خوری آخه اینقدر ای بابا کشتی خودت تو منظورش این بود که یعنی مدیریت شهری هست ولی فرهنگ شهری نیست یعنی فرهنگ استفاده از شهر یا استفاده بهینه از شهر یا سطل زباله یا هر چیز نیست ممنونم از تماست مجله اکونومیست که خب شاید معروف ترین خبری و اقتصادی دنیا باشه یه رسمی داره هر سال میاد شاخص‌های زندگی رو تو شهرهای مختلف دنیا بررسی میکنه یه لیستی از بهترین و بدترین شهرهای دنیا برای زندگی تهیه می‌کنه منتشر میکنه. امثال ظاهراً شهر ملبورن استرالیا به عنوان بهترین شهر از نظر شاخصه های زندگی انتخاب شده یعنی چه از نظر امنیت و چه از نظر رشد اقتصادی و بهداشت، آموزش، رفاه مردم الان ملبورن بهترین شهر دنیاست ما از همینجای موفقیت رو خدمت همه شنوانده هم هامون توی ملبورن تبریک می‌گیم. یعنی ملبورنی ها خوش به حالتون ها خیلی حال میکنیم سمت بود پشت چلو... شیشه چلو کبابی دما� به شیشه چلو کب خوردن مردمون نگاه میکرد میگو خوشمزه یه خوشمزه حال میکرد ما الان اینجوریم یعنی اینه که ملبورنی های عزیز الان ما دماغمون چسبیده اون شیشه خوشمزه یه پیاز پیاز بخوا پیاز بزن نوشه جون بعد از ملبورن شهرهای ویان پایتخت اتریش و بعدش هم سه تا شهر از کانادا یعنی ونکوور تورنتو و کالجری بهترین شهرهای دنیا از دید مجله اکونومیست در سال 2017 انتخاب شدن بدترین شهر دنیا هم برای زندگی گفتین کجاست دمشق بله دمشق سوریه که به خاطر وضعیت جنگ و این مسائل امسال بدترین شهر دنیا برای زندگی انتخاب شد اما وضعیت تهران خودمون ببینیم چه جوریه وضعیت تهران خودمون نسبت به پارسال کمی بهتر شده با چند پله صعود از نزدیکای غره جدول دیگه خودش یه چند تا پله کشیده بالا و الان از بین 140 کش چهل تا کشور 127مه خوبه دیگه بهتره یعنی دیگه اینه که تهرانی های عزیز اصلا خودشون رو ناراحت نکنن هر وقت دیگه خیلی از وضعیت بد اقتصادی و جرم و جنایت و آلودگی و فلان و هر چی دیگه بسطوم آمدین نیمه پل لیوانو ببینید یادتون بیاد 13 تا شهر دیگه هم تو دنیا هست وضعیتشون بدتر از تهرانه به زمین دمشق کردم یا لاگوس تو نیجو... نیجریه یا داکا پایتخت بن... بنگلادش خلاص اینا دیگه ظاهر باتن دیگه اینم بگم خیلی همین تهران همین تهران ته ولی رو آقا خانو خیلی همی همین این تهران و سد تا ملبورن و وین و و فلان و اینا عوض نمی کنن اینه که تهران ببین اول بشی آخر بشی دوستت داریم پرچم تهران همیشه بالاست. شده بگو واسه تو چی مونده همه چی نمی بوده نه از نیستیم سیمجلله اگه میمونیم بیرون تا چی بره لا پوستمون گدشه همه زیر چش بگو این همه ممه دیگه جا ها ها ماهها تحریم نیستیم همهگی سوخت میدیم نمیدونیم با هم سر چی دوست میشیم دیگه شده مسخره برام اینجا بس کم سوادت تفری گذشته مصرف مواد تهران شیک و پیک و دیگه شکل رستوران بوده شده پیکیک تهران کارتونی بود ولی گلد بردش خورردش میکننی می. دیگه دیگه رنگ بکس شد چش نذاشته میام میگه سوکس تو فرش خشنه از ذخورش فشنه انداری بود زمول میکنی مگه نه؟ تهرانی کشته مدت هزار تی آب ور مازه تو چی مونده؟ همه چی مامه راتی نمیدونی؟ انتشار دختر دختر لمداد طببت معمو شده اول برنامهش بگم وقتی اون عمل بنامه الکلی تا اون که عمل قبل داره نمیشه فرقی قش ها رو و رو ولی بازسم من ترام میدم با ل خندوم یه دست به فرمووی خط دندون چون اینجا هم گروه گروه هم. پشت داد میگن خوب تو رو تم بد لاشپنیشون با تو خوبن کارشون جور شد که ف رو توتر شدن نصف دختر تو ایران به آنتن میدن بدتر از ایران سچ. لیوازات بعدی شد مسکه تهران. البته تو تهران گفتین پرچم میشم میشه بالا، شما نمی دونید دو سوخترت با کی بوده. انقدر که بزرگ و همجی با مازراتی و بحث‌های خیلی اینا ما نمی فهمیم. اینا دیگه مال جوانای دیگه جدیدو تأسیس بریم سراغ آرش حسنی یا بحث‌های مهم اقتصادی داره. حالا ما همه اسکا پنج یا مخصوص آنهای فرید مقامی جا. آقا یه سال از آرش بپرسین ما ده بیس میل میشه سم همه که تو پول بیاد چکار کنیم؟ خونه بگیریم ما. خودو فرید <تصفح> کما کم فرید فرید خودتی بابا این چه اسم کجا میاری میذاری من فرشیدو میگم منافی مقامی فهمی اسمای عجب وجا خوب بودی سلام خوب بود؟ خوب بود؟ سلام خوبم آره جویی کردی دیگه با 120 میلیون میخوام خونه بخره چی کارش کنیم <تصفح> <تصفح> <تصفح> میتونی کمکی بدی آره بعد این میلیون بده کلاس چیزه معجزه و شو و آه آه آره بلکه اونجا با نه اون بیشتر میگن و ده میلیون که خونه نمیشه خیلید الان میشه میشه به خونه فکر کرد میشه به خونه فکر کرد آره البته بر اساس اون گزارش که میاریم معمولا یادت باشه متوسط قیمت یک متر مربع ت... توی تهران متوسط بازم داریم میگیم؟ بر اساس اون گزارش رسمی چهار میلیون و 500 بود حدودا خوبه میتری. دیگه چارپنیمت میتونه آره چارپنیمت میشه چارپنیمت زیر پله میتونی بگیری آره چارپنیمت حالا دیگه ببینیم چه جوری بخوابه بود چه بکنه بود یه جوری جمعه من... جورو بخواب کرده جاشی دیگه <تصفح> <تصفح> <تصفح> اما با ده بیس پنیو فرشید خب خونه نمیشه خرید اما خیلی کارا میشه کرد چه <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> دباشت... خرچ کرد؟ آره, <تصفح> آره اشخوهای <رو> کرد؟ <تصفح> آره اشخوهای کنه <تصفح> دوست دخترم که بالا تو این موزیکی که الان قبلش داشت پخش می شد من داشتم تلاش میکردم تصور کنم که تهران تو این چند سالی که ما نبودیم والا چه شکلی شده و اینا ادوان خودم اشترک هایی خیلی بد شد و ازیت حسن بیخیال از این دعوی عزید. عزید. ملون... عزید نمی کنی باشم نمیدونی چی چه پردا احتمالاً میشه یه اوملتی زد و همین موزاتیا رو تماشا کرد تماشا میکنی اونم حال میده پیش گفتیم که <تصفيق> قول دادیم یعنی یادت باشه گفتیم که آقا سنتو این بازاری که هست بازاری حالا رسمی تر یه خورده با همین ده بیست میلیونا چه چه میشه کرد چه کار بکنیم بهتره و قرار شد که من برم یه بررسی بکنم ببینم چه و اینها خب شد یه جوری پاسخ همین دوستمون رفیق تو فرید که بازارهای مختلفی که من بررسی کردم تو پنج ماه اول امسال تا مرداد ما مهم. بالاترین نرخ بازدهی باز همه اینایی که ما داری میگیم متوسطه یعنی ممکنه که تو همین بازارها یه فعال این بازارها بیشتر سود کرده باشه یکی ز... زیان هم حتی کرده باشه یا کمتر بالاترین نرخ متوسط بازدهی برای بازار سرمایه بوده بورس تهران بورس تهران بالاترین بازدهی سرمایه را داشته تو پنج ماه امسال به, به میزان شش و هفته همه آه. یعنی شما اگر اول سال سرمایه گذاری کرده بودی توی بورس داریم باز متوسط میگیم چون تو همین بورس یه نوستانگیرهایی هستن که مثلا این ساعت میخرن ساعت بعد میفروشن یا امروز میخرن تو جایی که پایین فردا تو جایی بالاتر میفروشن اونا اصلا حسابشون جداست اونا گیرن حرفه ای بازارن حتما بالاتر از این حرفا سود کردن اما متوسط 6.7 دمامه درصد بورس آمد. سود داده الان من بورس در حملینو میذاشتی الان و حملینو 670 تو آره، داشتی, داشتی دیگه. دیگه. آره. آره. بعد از این بازار بازار پوله یعنی گذاری توی بانک ها با احتساب نرخ سود 15 درصدی یک ساله اگر این کاری کرده بودی نه باقی 10 ملیون 670 گفتن آره دیگه 10 ملیون 670 زار تومن آره آره, آره... درست گفتن درست. رتبه دوم بازار <تصفح> پول بوده یعنی گذاری تو بانک ها با احتساب مثلا سود 15 درصدی یک ساله چون پنج سال و اینا بالاتره درسته. اونجا 6 و دو ده درصد بوده توی پنج ماه اول این سال نرخه <تصفح> متوسط بازده, بازده سرمایه بازار سوم بازار ارز بوده که توی این ما... میشه و ماجوجی میشه چون اول گفتی 15 حدودا 15 در یک سال در طول سال نه گفتم که با احتساب نرخ سود 15 درصدی یک ساله یعنی مثلا اونی که 5 سال گذشته هست درسته با بانکار رو دارم میگم نرجع اون که پنج سال گذشته مثلا 23 و د... 23 آها. درصدی داره میگیره آره. اون خوب بالاتر میره بعد متوسط داریم میگیم دیگه یعنی ممکنه یه سری هم توی بازار پول گذاری کردن زیر یک سال 15 درصد نمیگیرن عل الحساب در در می درصدی میگیرن متوسط 6.2 دو دو درصد بوده اون 5 و یه ساله و همه اینا رو که حساب بکنیم رتبه سوم توی بازدهی یا توی چندتا بازاری که میشه بررسیشون کرد بازار ارز بوده که دو درصد بوده آها نرخ بازه ای پنج ماه اول امسال متوسط بود باز... دلار بخری یورو بخری دلار آره دقیقاً و بازار سکه که بازار زیاندهی بوده آه. بازار سکه به طور متوسط زیان داده آره باز تو همین که ممکنه کسی هم بوده باشه که سودم کرده یعنی میدونسته که بشه دلیلی اومده پایین و این موقتیه و وقت خوب خریده وقت خوب فروخته درسته. اما یعنی الان ده. عملا با این چیزایی که گفتی مطالبی که گفتی حالا همین 10 میلیون 20 میلیون هر عددی که دارن بورس بهتر بوده ولی آره. خب بورس هم بعد بدونی چی کار آره، آره، آره، آره، یعنی آره... و... یعنی بعد آدمی باشه که این کاره باشه یا حداقل بهش اعتماد الان یه اتفاق خوبی افتاده الان که مثلا یه یه سری شرکت هستن آها. که متخصص این داستانن شما قرارداد می‌بندن هزینه هم میگیرن خب آره, آره آره آره درصد میاد پایین درصد پایین, پایین میاد چون که بخشی از اون سود رو اونا در واقع کارمز خودشون هست دقیقا. اما اونا میتونن سرمایه شما رو چیز بکنن مدیریت بکنن پرتفولیو ب... آره پرتفولیو براتون درست می‌کنن یه سبدی از سهام درست می‌کنن سهامای مختلفی رو میخ... سهامای مختلفی رو برای شما می‌خرن و بعد به حال یه حالا قرارداداشون من دقیق نمیدونم احتمالاً مثلا میگه شما تزمینی باهاشون ببندید که دست کم یه حد حداقل سودی رو بهتون بدن بعد بالاتر از اون مثلا کارمزد بیشتری بگیرن خلاصه میشه ورود کرد به بورس و بعد اما چون هم با بانک ها هستن دیگه الان یه چیزی قبلش داشتیم صحبت می‌کردیم در نرخ سود بانکی داره تغییر میکنه؟ آره ببین بانک مرکزی پارسال هم یه دونه دستور عمل دادش و محدوده یه نرخ سود بانکی رو تعیین کرد نرخ هم. سود هاست هر چی که داریم الان صحبت می‌کنیم کاری به وام بانکی و تحصیلات نداره یعنی پول میذاری فقط آره. برای که سود بگیری. دقیقا. نرخ سود بانکی رو پارسال یه بخشنامه داد که آقا باید بین 10 تا 15 درصد باشه نرخ سود سپرده‌گذاری گذاری درست مدت و کسی تخطی نکنه، اما در یک سال گذشته بانک‌ها رو رعایت نکردن چون یکی رقابتی دارن ها با هم دیگه برای اینکه سپرده بیشتری جذب بکنن. درست که بتونه چرخشون بچرخه چون اوضاع خوب نیست. آره. و با کارای حسابداری، کارای عجیب و غریبی نرخ سودای بالاتری رو وعده کردن. بانک مرکزی توی چند روز گذشته معاون اقتصادی بانک مرکزی یه مساحبهی رو گفتگوی نشست مطبواتی رو داشت و اعلام کردش که اگر کسی دیگه بالاتر از 15 درصد به نخ سود سپرده کوتاه مدت یعنی یک ساله بیشتر اگر سود بده حتماً بیشتر از 15 درصد. درصد برای یک سال بانک جریمه میکنیم نمیدونم اون رئیس شوبر رو ام درجه میدیم و الان هست بانکی, بانکی که بالاتر بده آره بانک های خصوصی میگم که الان, الان دارن با هم دیگه رقابت میکنن برای جذب بیشتر سپرده اما گفت از 11 شهریور نرخ سود کمتر از یک سال یعنی روز شمار 10 درصد و نرخ سود سپرده یک ساله 15 درصد یعنی بیشتر از این نباید باشه حالا اگر رایت بکنن چون که ممکنه که رعایت نکنن اما چه اتفاقی میفته و یا چه اتفاقی افتاده این،, این نشانه اول نرخ، کاهش نرخ سود بانکی یعنی یا, یا تمایل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکیه درسته اولین اثرش میتونه توی بازار اجاره ها باشه اه. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که سابخونه هایی که یک ساله خونه رو اجاره میدادن می به مسجر اون پیش پولی رو که می گرفتن خیلی هاشو می بردن توی بانک می‌ذاشتن می و این 15 درصد رو می گرفتن یا درست. بالاترش رو که می‌گیم بانکو بالاتر می 18 19 دن. خب اجاره ها میره بالا اینطوری آره اینجوری رهن آره دیگه الان در واقع صاحب خونه ها به این جنبندی می رسن که خب اینجوری بهتر اینه که ما اجارهه بالاتری بگیریم یعنی درآمد روز ماهانه بیشتری داشته باشیم تا به آره جای اون سودی که از بانک بیشتر می‌گرفتن خب حالا می‌میرن رو اجاره که اما،, اما چرا سیاست دنبال اینه که نرخ سود بانکی رو بیاره پایین خب احساس سیاستمدار اینه که چند تا نکته داره اول اینکه نرخ تورم پایین اومده نسبت به سال‌های قبل و به هر حال الان ارزش پول سپرده گذارا حفظ میشه با نرخ تورم پایین اومده و فکر میکنن که مثلا این پول اگر تو بانک نیاد و اینجا رسوب نکنه احتمالا میتونه مثلا بره تو جایی مثل بورس دوستم. یا یه جای دیگه‌ای بره که بتونه یه ک... کمک بکنه به بخش مولد اقتصادی اما الزمن خب این اتفاق ممکنه که نیفته ممکنه که اون سپردهایی که خارج میشن از ها برن تو بازار ارز سفته بازی بکنن برن توی بازار سکه بورس بازی بکنن و تورم اونجاها درست بکنن مهم. یعنی خیلی تصمیم سختیه که بانک مرکزی داره میگیره اما خب استدلال بانک مرکزی اینه که نرخ تورم پایین اومده تورم انتظاری تو جامعه تر یعنی مردم دیگه انتظار ندارن که مثل سال‌های قبل تورم بالا بره و الان شرایط مناسبی که نرخ سود بانکی رو بیارن پایین به نفع تولید کننده ها یا تاجرایی که تو صف وام بانکی اند این بخش خوب ماجرا است اما بخش بعد ماجرا اینه که همین الانش که نرخ سود تسهیلات بالاست نرخ سود بانکی هم بالاست خیلی‌ها تو این صف منتظرن که بتونن وام بگیرن و این وام بهشون نمیرسه و وام‌ها به افراد خاص میرسه درسته. کسایی که ران دارن کسایی که بله. پارتی دارن کسایی که فلانه چه تزمینی هستش که تازه پول ارزونترم بانک بده بعدن حالا صحبت بعدنه این تولید کننده واقعی یا تاجر واقعی اینا رو بگیره این تزمینم واقعا وجود, وجود نداره, نداره. به هر حال یه دوگانه خیلی عجیب و غریبیه که امیدواریم که ام اون لبه‌ها و اون رویه‌های خوبی رو که گفتیم اونها اتفاق بیفته نه روی‌های بعد امیدواریم ممنونم ازت آرش حسنیار رو میتونید در توییتر با شناسه آرش اچ نیا فالو کنید ممنونم قربونت اما هفته گذشته آلبوم جدید گروه ماکان یا همون ماکان بند به اسم دیوون بازی منتشر شد این آلبوم دوازده تا ترک داره که از بین اونها سه کار به «های این خیابونها بارون و هربارین درو قبلا به صورت تک آهنگ منتشر شده بودن و باقی آثار کارهای تازه این گروه هستن با همکار نرو رو بشنویم از آلبوم جدید مکان بند به اسم دیوون بازی دستم بنده به دلت هی بنده به دلت و گیره بستم چشمم و برات هی رو همه آدمای دیگه عاشق شده این آدم باز عشقم تو فقط با من باش نیست کسی توی قلبم جاش نظ زلم و با صن هاش نه جون من نه رو بهمون به زای چیزی رو می بگم ونه و سر دور بشم توم دنیا فکرم ماغ منو بردی نه جون من نه رو بمون چیزی ها میخوااممت بگم نمیتونونه و سر دور بشم تو هم دنیا با فکرم ماغ منو برگییه؟ یه اونم پیرم سر هر چی الکی بهونه میگیرم میتونیم ما با هم بمونیم باز میتونیم بال بدیم به امواس پرواز سر در صد عشق من به تو باور کنین حرف منو بسوار به احساسه تو قریط تابشه فقبی من در او زیاد چیزیم میخوام بگم نمیتونه وصل از, از دور بشم تو همه دنیامو پکنم و آغشم بردی نه تو نماد نرو و میذاری چیزیم میخوام بگم نمیتونه وصل از, از دور بشم تو همه دنیامو پکنم و آغشم رو بردی ششم شهریور سال روز تولد مردی که خیلی زود و نابهنگام ما رو ترک کرد حسین پناهی، بازیگر، شاعر، نویسنده و کارگردان ایرانی وقتی در سال 1383 در 48 سالگی از پیش ما رفت هنوز ناتموم بود هرچند شخصیتی متفاوت و غریبه بود و معلوم بود که جور دیگهی به دنیا نگاه میکنه و میاندیشه اما زود بود برای رفتنش مردی که با کارکتر صدا و لحن خاصش و زندگی درویش معابی که داشت تمام شکل و شمایل زندگی و حتی خاطره خودش رو تو ذهن ما به شکل متفاوت و مخصوصی نقش زد از حسین پناهی به عنوان بازیگر چندین فیلم سینمایی و تعداد بیشتری تل به یادگار باقی مونده اما شاید یکی از مهمترین و پرترفتارترین کارهایی به جا مونده از پناهی شاید خیلی بیشتر به واسطه اونا میشناسنه شعرخانی های معروفیه که داره و شعرهایی از خودش رو دکلمه کرده ما هم حالا میتونیم زمن تبریک تولد این شخصیت دوست داشتنی با هم به یکی از دکلمه های اون گوش کنیم دیوونه کیه؟ آقل کیه؟ جونبر کامل کیه؟ باسته نیار به عزت خمارم او زله یه هیست گفت نمیگم، سوال دارم، یه تریلی محال دارم تازه داره حالیم میشه چیکارم؟ کارم میچرخم و میچرخونم سیارم تازه دیدم حرف حسابت منم طلای نابت منم تازه دیدم که دل دارم بستمش راه دیدم نرفته بود رفتمش نش نشکفت رو رستمش ویروس که بود حالش نبود هستمش جواب زنده بودنم مرگ نبود جونه شما بود مردن من مردن یک برگ نبود تو رو به خدا بود اون همه عفصانه و افسون ولش این دل پرخون ولش دل عره گم کردن گدار مارون ولش دموش پرنده ها بالایی کارون ولیش خیابونا صف زدنا شپ شپ پارون ولیش دیگونه کیه کیه جونور کامل کیه گفتی بیا زندگی خیلی زیباست دو چش چشم رستادی بنام تا ببینم که دیدم پرسیدم این آتش بادی تو آسمون مناش چیه کنار این جوب روون مناش چیه این همه راز این همه رمز این همه سر و اسرال اوردی حیرونم کنی که چی بشه نه بالا ما تو پریشونم کنی که چی بشه نه بالا نبودم من حیرونت نبودم تازه داشت میفهمیدم که فهم من چقدر تو که دنیای خودش حریف سهت تا رستمه گفتی چشمات چشماتو وقت رفتنه انجر جرم خود دنیا بیاد آهن و فسفرش کنه. دشمقام میفهمیدم که فان چقدر کمه که تو دنیا و خودش حریف صد تا رستم گفتی برچش ما تو وقت رفتن انجه میخواد دنیا بیاد آهن و فسفرش من چشمای من آهن زنجیر شدن الکی از حلقه زنجیر شدن امو زنجیر با زنجیر تو تنو چشم منو انجیر تو بناوز ویونه کیه او خل کیه جونور کامل کیه کی یست که من مدیریت شهر یه کم تنبله یعنی تنبلم نیستا به خاطر آب و هوامونه میگن مال یاد دریاچه نمکه ولی چیزی که هست تو کارهای عمرانی که یه هفتش ده سالی دیرتر به فکر میافتن مثلا رو گذر زیر گذر که باید ده سال پیش درست میشد تاوزه داره یه شکلی میگیره یا اینکه ساخت ساخت و راه اندازی مترومون که باید تو گیم سبت بشه آخه این 15 سال یه طول کشیده کلن ما تو شهرمون همه چی راحت می گیریم مثلا کاندید شورایا برای اینکه وارد لیست امید بشن و بپرن وسط شورا به جای تبلیغات و نشون دادن ایده ها و راهکاراشون چند صد میلیونی پول دادن حالا به کی و به چی والا اگه بدونم حتما حد حت زدید شهر من کجاست مجده هستم از شیراز شهر راز به به به همه شیرازی‌ها همین شما از مدیلیت شهری گفتن سپاس این هفته دوستان سردار سلیمانی به مناسبت روز جهانی مسجد پشت تریبون رفتن و حرفهایی زدن که در نوع خودش جالبه توجه بود مثلا یه جاییشون فرمودن که آقا چرا ای میگیم این بیجاب اون باجاب این اصلاح طلب اون اصولگررائ و مایی توی یه خانواده همه بچه ها یکی و یه جور هستن. بعدش هم گفت همه فرزند همه فرزندان یه خونه واده ایمون از این صحبت ها یعنی شنیدن این حرفها از دهن قاسم سلیمانی وایید شد یه لحظه فکر کنیم نکنه ایشون از الان خیز برداشتن برای ریاست جمهوری دوره بعد. البته حرفای جالب ایشون به همین مورد خط نشد در ادامه به حضور نظامی ایران توی سوریه و عراق اشاره کردن یه خاطره جالبی از معظم له نقد کردن و گفتن وقتی قرار شد ما نیرو بفرستیم برای حمایت از بشار اسد یه شخصی به مقام معظم رهبری گفت چرا ما باید نیرو بفرستیم که از یه دیکتاتور دفاع کنیم؟ مؤذمله هم با اون بصیرت خاص خودشون فرمودن مگه ما تو رابطمون با کشورهای دیگه نگاه میکنیم که کی دیکتاتوره و کی دیکتاتور نیست ما مسائل رو نگاه میکنیم بله یعنی مصلحت باشه مؤذمله با کینگ جون اون مؤذمله کره شمالی هم فالوده میخوره اصلا شنیدیم میگن دیوانه چه دیوانه ببینه خوشا شایعت دیکتاتورام هم, هم دیگه یعنی کلا حال میکنن با هم دیگه حالا یه نفر انر انر پچه اومده به رهبر میگه ما چرا باید نیرو بفرسیم از یه دیکتاتور دفاع کنیم یعنی به خدا معظمله خیلی خودشو نگه داشته محترمانه جوابشو داده پشت دست نزده دهنشا آخر هم حاج قاسم سلیمانی ذکر خیلی کردن از آیت الله حاشمی رفسنجانی و فرمودن که آقای حاشمی خدا بیامرز حرف خوبی زد در مورد امریکایی ها که گفت عقل گنجیشکو گذاشتن تو کلیه دایناسور البته الان تو جمهوری اسلامی اینجوری نیست میدونید قضی برعکسه یعنی بزرگان نظام همگی عقل دایناسور و تیراناسور و بعضی گناه های فسیل شده مقبل تاریخ و تو سرشون دارن ولی خب جسهشون جل بقیه بر قدرت و اندازی که آره اینه که ایشالله خدا خودش آخر هممون رو با این عقل و این جسهی که نظاممون داره ختم به خیر کنه من مریزم به چشای نازد، اش میونم من از تایر آزاد. من نیست نیسوله این دل آشک، ترسمیه که بری به پاهاش. به وارون به دریا به هر کی که تو رو دید به گواه به گواه به هر جای از دیب به شدی عاشق من شدی عاشق من دیوارم به, به دریا به هر کی که تو رو دید بگو عاشقتم بگو عاشقتم به هر جا رسیدی بنویس سودا رو دیوار شدی عاشق من شدی عاشق من هم سبب دلم واسط دلم هست اس نه یوا غافل از این راه بسنم من نتا گر بری دل بدهی بی من بی وفات شوی کم کنین فاصله جا را جان که مرا فنا کنی به بالون به دریا به هر کی که تو را دید بگو واسرتم بگو عاشقتم به هر جا اشرمه شدی, شدی به, به دریا به هر کی که تو بگو عاشرتم بگو عاشقتم ده هر چوری سو درو دیووار شدی من شدی من <تصفيق> های عزیز علی رضا تلیسچی شنبه آینده چهارم شهریور توی تالار گلستان گیلان برنامه داره که این برنامه ساعت 9:30 شب برگزار میشه و قیمتش 250 پنجا سعید خوبی من زن نفس دستم چی دویدی چی شده مثلا که بدم. یه کار نیمه تموم داشتم چی بود کار نیمه تموم بگو من بهتون رنگ گروش پریده اصلا نمیتونه نفس بکشه هزار نفس, آره. نفس بکشه نفس بکشه نفس, بکشه. نفس, بکشه. نفس, بکشه. نفس بکشه. فقط همین فقط همین آلیزوتالیشی داریم الان قیمت بلیتشو قیمت بلیتشو آلیزوتالیشی 50 تا 100 هزار آره میشه زمینم تو باعث شدی که این زندگی رو زیبا ببینم تا نفسم بامه توی قلبم هم رامه با حیالشون میگیرم اون همه دنیامه توی آقوش شامه دیگه دور از اون میرم دیگه دور از اون میرم همونم که دیوونه میشه برات اون که داره نفس میکشه تو هوات، اون که دلش واته عاشق دنیاته باد نشسته تو دنیا تا دنیا آسمان من همونم که دیوونه میشه برات اون که داره نفس میکشه تو هوات اون که دلش واته عاشق دنیاته باد نشسته تو دنیا تا دنیا من همونم از علیرزا چی همطوری که سعیدم گفت گیلانی ها میتونن کنسرت علیرزا چی رو شنبه چهار شهری بر در تالار گلستان گیلان شاهدش باشن ساعت نهونی قیمتش هم پنجه تا سد هزار تومنه اما دوستان بعضی خبرها رو آدم که میخونه نمیدونه بخنده گیری کنه سرش بزنه تو دیوار بلند شب پنجره بپره پایین اصلا آدمم اینجوری بلا تکلیف میمونه آقا چند وقت پیش تو خبرها داشتیم که ظاهرا توی یک دادگاهی قاضی دادگاه دقیق بفرمایید چند وقت پیش توی دادگاه قاضی دادگاه شهادت شهود رو در جریان دادرسی قبول نکرده واسه چی دقت کنین خیلی مهمه به خاطر این که شهود صورتشون رو با تیغ اصلاح کرده بودن. بله در مورد دادگاه های دولت اسلامی عراق و شام و داعش و اینا صحبت نمی‌کنی ما در مورد همین دستگاه قضایی خودمون داریم حرف میزنیم دلیل قاضی همین بوده که از اونجا که تراشیدن ریش گناه صغیره هست و از اونجا که شهادت کسی که اصرار بر انجام گناه صغیره داشته باشه پذیرفته نیست خب این شهود هم شهادتشون به درد خودشون می‌خوره قاضی قبول نکرده واقعا سیستم قضایی جالبی داریم ما یعنی به بعد اگه درگیر پرونده‌ای شدین خواستین برین دادگاه اگه ما مونده به دادگاه ریشاتون رو نزنین که امچ پروپیمون با اقتدار با صلاحیت با صلابت بتونید توی دادگاه حاضر بشین چرا اصلا اگه ریش توپی و همچه مشتی بذارین شهادتتون ب... شهادتتون دو نفر بلکه هم سه نفر اضافه دیگه دیگه بسته به اینکه تو مثلا زیر گردن ریش داشته باشی یا اینکه ریشاتون تا سر ناف بلکه پایین‌تر هم رسیده باشه کلا ببینین ریش خیلی چیز مهم دیگه فهم می‌کنین چرا شهادت هر دوتا زن به اندازه شهادت یک مرد ارزش داره تو دادگاه باسه این که ریش ندارن دیگه خلاصی زمانی میگفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر الان دیگه هر که ریشش بیش اعتبار و صلاحیتش و اینا برای شهادت دادن تو دادگاه بیشتر خلاصی که ما از همینجا این همه دقیقت و ریزبینی و نکته سنجی رو خدمت مسئولین قضایی و قضاوت محترم تبریک میگیم امیدواریم با درایت و دقت نظری که این عزیزان دارن در دعواهای قضایی همیشه حق به حقدار یا بهتر بگیم حق به ریشدار برسه اینجوری دیگه الان بردم تا بوی دست دست آخر یعنی باز, باز را باز من وقتی که در اون قهری ولی تازن اون جایی میابوره با تو دلم گرم و خوشه عاشق مثلا منو در دل من یا تو به همین میشه با هم اتمال منی رود تو در جان منی مثل همشه آغوش تو آرامشمه پرچی پیشم باشه کمه من به تو گیرم برگ برای همه اما سراخ هست تو اگر قبل تو میگیرم روتون نبیریز یک یکزارره به من از در بدرون قهری ولیتنزن اون جایی می آره با تو دلم کرد و خوشه حاشم مثلا بداچه؟ شهر فقط مال منی تو عرفاز در این خانه دروغ است، این کار که دنیای منی تو رویا همه فکر رو خیال است، دستای من و دست تو کوپ هست. فهمیدم اگر دیر شدم ما فصلا همه هم دست تو بودن فصلا همه هم دست تو بودن ارانجمنت <تصفح> بریم سراغ ایستگاه دانش و فناوری با مهدی احمدی مهدی سلام سلام فرشید سلام به تو سلام به همراهان ایسگاه پنشنبه خوش اومدی تبریک ارز میکنم ده سالگی هشتک شده بله ده سال بعد شما تبریک آه... بگیم نگه به کی تبریک بگیم, بگیم. بگیم. بگیم. <تصحن> به همه این بچهایی <تصحن> که در تویتر فیسبوک اینستاگرام ما رو دنبال میکنن و از هشتگان ما استفاده میکنن یا خودشون هشتگ میزنن چون موجزه هشتگ اینه که اصلا میدونید دنیای وب اینجوری شکل گرفت این که میگن تور جهان گستر و به <تصفح> تور رنگ تشبیهش میکنن میگن اینه که یک کلماتی که بیشترم به رنگ آبی بود به صورت سنتی و قابلیت کلیک کردن داشت شما رو واسط میکرد به یک دنیای متفاوتی درباره اون کلمه مثلا میدیدین که اگه درباره ایران حالا مثلا توی ویکیپیدیا روی کلمه ایران که هایپر شده لینک کلیک کنید میرسین به یک مقاله درباره ایران یا داره. مثلا در توییتر هشتگ همین نقشو بازی میکنه وقتی که مثلا کلمه ایران هشتگ شده باشه روش کلیک میکنید به یک دنیای متصل میشید از همه توییت هایی که درباره ایران داره. ایران هست یا هشتگ یا ایران رو دارد ایران منطقه در این سالها خب ابتکارم از توییتر شکل گرفت یعنی توییتر بود که برای اولین بار این کار رو رواج داد بعد فیسبوک به این وادی پیوست بعد گوگل پلاس یک ابتکار خوبی به خرج داد در اون زمانی که بیشتر فعال بود و <تصفيق> چیز میکرد اونم این بود که هشتگوی هوشمند هشتگ میزد مثلا شما اگر یه مطلبی درباره ایران نوشته بودین اون خودش هشتگ ایران هم به صورت هوشمند اضافه می‌کرد به مطلب خودش اضافه می‌کرد آره اتوماتیک. اضافه میکرد و خب در اینستاگرام هم همین ای اتفاق افتاد در اینستاگرام هم این اتفاق افتاده که شما یک رشته عکس های مختلفی که درباره یک موضوع خاص هست و واقع کاربران با اون موضوع خاص هشتگی ایجاد کردن رو میتونید پیدا کنید و خیلی کمک میکن که کشف کنید اون دنیا رو خلاص این روزا ده سالگی هشتگ بوده یعنی ده سال پیش همین موقع ها شروع شده اولین شده با. تقریباً از روزی که توییتر چکره فران ده دوازده سال هست که توییتر وجود داره و خب اول این سرویس توییتر بود فقط یه بار یک برنامه مفصلی هم در این سالها در بایه هشتگ در داتکام داشتیم میخوام این بکنم. پیشنهاده بکنم لابل های مختلفی که در این باره میشه به کار بران کرد اونم اینه که سعی کنید هشتگ های معنادار و خاص انتخاب کنید مثلا اگر که دارین یک می مینویسید که مثلا، اینجا هوا سرد است لازم نیست هم اینجا هم هوا هم, هم سرد. سرد و هم است که یه فعلیه که مثلا چیزها هشتگ کنید هوا بو فقط مثلا شاید مثلا هوا بول. و سرد رو یا شاید اوه. فقط سرد رو مثلا اوه. هشتگ کنید که در واقع کمک کنید که اون زنجیره ایجاد بشه پیرامون یک موضوع مهمترین کلمه رو عملا اون آره. کلمه دیدی که یکی از اشکالاتی که در فیسبوک در اینستاگرام در این دو تا خیلی زیاد دیده میشه اینه که هشتگای خیلی زیادی کاربران میذارن یا اینکه میان یک بخش زیادی از کلمه رو تبدیل میکنم به, به هشتک خب از هشتک که بگذاریم قضیه یه های قاتل چی من خیلی ترسیدم دارم راستش یه مطلبی چند روز پیش خوندم دادم اصلا چی شده یعنی واقعا من چون ترمیناتور و این فیلمای <تصفح> عجیب غریب و خیال این تخیلی ها رو آدم می‌بینه و بعد میبینی که نه واقعا که بخشش درسته و اصلا دانشمند آره ها من... ترسیدن از این که این روبات ها تبدیل به روبات قاتل میشن آره چی من... من خیلی ترسیدم اونتها بعد دیدم که ما این ترس رو باید خیلی خیلی وقت پیش داشتیم, داشتیم. الان توضیح میدم که چرا روبات های قاتل به بخشی از تسلیحاتی میگن که استفاده ازشون رایجه و اون تسلیحات بدون اینکه انسان در بد تأثیر گذار باشه عمل میکنن اهداف مثلا آدم ها رو هدف میگیرن یا تاسیسات رو هدف میگیرن کجا رو خب <تصفيق> یه شکلش همون چیزیه که شما در ترمیناتور دیدید یعنی مثلا آه. ماشین ها و هایی که تبدیل میشن به جنگ افسار در روبو روبوکاپ اگر که یادت باشه بله. اون پلیس آهنی مثلا نمونه چالش بشر بود با این جور در واقع ربات ها که این ربات ها خودشون کنترل میکنه و هوش مصنوعی باید داشته باشن نه, نه،, نه؟ الزاما اینجوری م... نیست م... که هوش مصنوعی داشته باشه اولین برای جالب اینکه میگم که من نسبت به خیلی قبل از اون ترسیدم اینه که اولین نمونه های چیزهایی که الان به عنوان ربات قاتل ازشون نام برده میشه مهم. به این خاطر که گفتم دخالتی بشر نداره در مثلا منفجر شدنشون یا در شلیک کردنشون اینها آها. همین مین های زمینی هستن که از قرن 17 تا الان دارن استفاده میشن بیشتر این استفادهش هم در جنگ دوم جهانی بود دو یا مین های دریایی در واقع اونها مجموعه این هستن که شما بدونین که بهش فرمان بدین که الان منفجر شد یا اینا تا یک مانعی بهش برخورد میکنه منفجر, منفجر می شن. می شن. ولی این مفهوم خیلی تو این سالها گسترش پیدا کرده درباره باید این ها از این نگذرم که در یک ای به اسم معاهده اتاوا که در سال 97, 97 میلادی 1997 امضا شد خیلی از کشور جهان تقریبا 162 کشور جهان توافق کردن که دیگه از اینها استفاده نکنن ایران هم جز اون کشور است. حالا ببینیم که استفاده میکنه یا نه چون خبرهایی هم میرسه اینها ولی این تکنولوژی خیلی تغییر کرده پیشرفت کرده و الان شما مثلا با چیزهایی مثل این پهبات ها طرف هستید البته فرق میکنن این روبوت های قاتل با پهبات ها اینم توضیح میدم ولی با چیزهایی مثل پهبات ها طرف هستید که میرن یک چیزی رو میزنن یک هدف شده شدهی می میزنن فرقشون اینه که پهبات ها رو آخرش یک عامل انسانی کنترل میکنه ولی این روبوت های قاتل رو هیچ عامل انسانی کنتورشون نمیکنه خودشون هدف رو تشخیص می دن خودشون هدف میکنن. سال گذشته مقراری تصویب شد برای محدود کردن استفاده از اینجور روبات ها به خاطر همین که دخالت عامل انسانی درشون نیست در تصمیم گیریشون نیست ولی هنوز توی بعضی از سیستمای دفاعی سیستم‌های دفاعی موشکی اینا از نمونه از این روبات ها که در واقع ماشینه که تصمیم میگیره چیکار کنه نه انسان استفاده می یعنی تو تسلیحات نظامی الان هم چیزی هست و استفاده میکنن در بخش از تسلیحات نظامی این حشداری هم که اخیرا آمده یه سری از کاشنس های سازمان ملل دادن اینها به خاطر همینه که هنوز استفاده از این تسلیحاتی که بدون دخالت از انسان عمل میکنن توی سیستمای دفاعی دیده میشه. بسیار خوب خیلی عجیب غریب این بحث عجیبیه و حالا بعدا هم شاید دوباره برگردیم بهش و بجبهش حرف بسنیم خیلی, خیلی جذابه آره. یه ذره و یه ذره ترسناک <تصفح> ببینیم چقدر به این داری؟ ترمیناتور داریم از آره. میشیم ممنونم ازت مهدی ممنونم. احمدی رو میتونید روی توییتر فالو کنید باش ناسه مهدی احمدی هشتگ بزنید هشتگ مهدی احمدی هم میتونید نه. بزنید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 Time. So baby, this the perfect time I'm just trying to get you high Faded off this touch We don't need a lonely night So baby, I can make it right You just gotta let me try To give you what you want You've been scared of love And what it did to you You don't have to run I can't get said you think we don't I feel it coming The Weeknd و Daft Punk چالش گویندگی این هفته مربوط است به معرفی دویکند که میتونیم بشنویمش با صدای گوینده, گوینده های افتخاری این هفته به ترتیب مرزیه، الی، خورا، مرزیه و اصل. دل مکان انتصفایه معروف به ویکند تران سرا و خواننده پاپ با آلترنتیو آر کانادایی که تا امروز 6 بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده و یک جایزه گرمی رو هم در کارنامه حرفه ایش ثبت کرده این هنرمند در سال 2011 و با موضوعی زیرزمینی هاوس اف بالانس برای اولین بار به طور جدی در دنیای موسیقی مطرح شد And she'll never, never know that these, these eyes that I'm staring at. Let me see that. Look at all this cash, and I emptied out my cards too. Now I'm leaning on that. Bring your love, baby. I could bring my shame. pain I got my heart right here I got my scars right here Bring the cups baby I could bring the drinks Bring your body baby I could bring you fame And That's my mom burns too Just let me mom قبل در سال 1990 در یه خانواده مهاجر ایتیوپیایی در کانادا به دنیا آمد وقتی کودک بود پدرش خانواده رو کرد و مادرش برای اداره زندگی مجبور به کار تمام وقت پرستاری بود و بعد از کار برای یاد گرفتن زبان انگلیسی به یه مدرسه شبانه می رفت. به همین دلیل بیشتر اوقات عبل در کنار مادر بزرگش که فقط زبان بومی اتیوپیایی میدونه سپری شد. به این شکل انگلیسی تبدیل به زبان دوم این نوجوان شد اون که بدونه در آینده های موفقی رو به این زبان خواهد نوشت بعدها در سن 17 سالگی اول مدرسه و بعد خونه رو برای همیشه ترک کرد از اونجایی که این اتفاق در یک آخر هفته یا ویکند افتاد، ابل به یاد اون روز سخت لقب دی ویکند رو به عنوان اسم هنریش انتخاب کرد. ابل که مایکل جکسون رو یکی از تأثیر گذارترین هنرمندها در گرایشش به خوانندگی میدونه، فعالیت حرفه ایش رو با ساختن چند مجموعه و انتشار اونها بر روی اینترنت شروع کرد که در نهایت مجموعه هاوس آف بلونز کار موفقی از آب درومد و امکان بستن یک قرارداد رو براش فراهم کرد. همین مسئله باعث شد که ابل بتونه کارهایی که در گذشته ساخته بود رو هم منتشر کنه. که از بین اونها تریلوژی که در سال 2012 منتشر شد، تبدیل به آلبوم پرفروشی شد و روند به شهرت رسیدن این هنرمند جوان رو تسریع کرد.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 Face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. We went what deep in love, 'cause I know, 'cause I know, girl I know she told me. یک دیگهی که در به رسیدن دویکند نقش مهمی داشت فضای رازالودی بود که به دلیل پنهان بودن چهره اول از رسانه ها در بین طرفداراش به وجود اومده بود اول مصاحبه با هیچ نشریه یا رسانه ای رو نمی پذیرفت و حتی در طرح روی جلد آلبوم کیسلند که در سال 2013 منتشر کرد از تصویر یک زن به جای عکسی از خودش استفاده کرد قسمتی از این جاذبه رازالود که پیرامون این هنرمند به وجود اومده بود عمدی بود اما بعضی ها اون را به خاطر خجالتی بودن و کم اعتماد به نفس بودن دویکند در ابتدای کار هرفعیش میدونند. Trying to keep it I don't seem so simple I just had to be Before I saw you And you don't have to Do it at my temple Always try To send me off to rehab But I started Feeling like it's decaf I'm just Trying to live life for the moment And all These motherfuckers want روند روبه رشد The Weeknd در سال 2015 به اوج خودش رسید و ابل تونست با آلبوم Beauty Behind The Madness خودش رو تا شماره یک لیست بهترین های مجله بیل بالا بکشه اما این تمام موفقیت این آلبوم نبود و قطعه های این آلبوم هفت نامزدی دریافت جایزه گرامی رو در سال دو براش به ارمغان آوردند و ابل تونست برای قطعه ای Earned It که در ابتدا به عنوان یکی از ساند فیلم Fifty Shades of Grey منتشر شده بود برنده جایزه گرامی بهترین پرفورمنس آرنبی بشه این جایزه ارزشمند اسم این هنرمند جوون یعنی دویک رو بین بهترین های موسیقی دنیا بیش از پیش مطرح کرد. So used to being used, so I معرفی The Weeknd رو شنیدیم با صدای شرکت کننده های منتخب این هفته شما هم اگر دوست دارید خودتون رو در زمینه گویندگی به چالش بکشید یه ایمیل خالی یا با عنوان چالش گویندگی به آدرس ایستگاه پنج ات راژیو بفرستید تا متن چالش هفته آینده رو دریافت بکنید. ایستگاه پنجشنبه این هفته هم داره کم کم به لحظه های آخرش میرسه تا پنج آینده که بتونیم دوباره یه چند ساعتی رو با هم باشیم روزهای زندگیتون شاد و روشن. بله، به پایان رسیدیم و باز هم لحظه خداحافظی باید رفت. به قول جلال سعیدی خودمون اشک میبارد خداحافظ، باد میآید خداحافظ، کوچه باران خورده و خاموش هرچه چه پیش آیت خداحافظ. بوی تند زخم تنهایی طعم تلخ وقت شیدایی، باز از نو دوباره میپرسم، باز تنها یا تو میآیی؟ این نشانها شکل رفتن بود، آن شبه حرم تن من بود، پشت هیچ و سمت پوچستان آخر این قصه روشن بود فتح باغ و حجم ویرانی، آن توهمها که میدانی، این تبار خسته مغلوب، داغ مانده روی پیشانی سهم ما از خاک گوری شد سردی و سرسام و دوری شد سهم ما از حق ما کم داشت چشممان مغلوب کوری شد گرچه رفتم باز می‌گردم باز هم آغاز می‌گردم عینک ما تا شب رجعت تا شبی که باز می‌گردم عشق می ببارد خدا حافظ باد می آید خدا حافظ کوچه باران خورده و خاموش هرچه چه پیش آید خدا حافظ عصر پنجشنبه خوش و رفتناتون کم دوام کاش این امید زندگی می توانستم فراموشت کنم یا شبی چون آتش سوزانده در در مزار سینه خاموشت کنم کاش چون خواب گران از دیدم نیمه شب ها یاد رویت می گرید مرغ دل افسرده حالا بست پر. از دیاره ارزویت می گری. سال سر نیاز از وجودم چون وجودت دور بود در دلم آتش آن آنگاه کاش آن شب چش پایم بود که از باقی خوش رویایتا دختره اندیشه پر میگرست فارغ از اندیشه هجران و زندگی بی عشق میگره